تابخانه گویای ایران صدام تو خودت بکش و فوارشم خودت ببر اما رجب از اتاق بیرون آمد و در حالی که به اتاق اشاره کرد، شما لازم اتاق الان من میام دلدرس خوب بکنم از ما راحتی داشتم میترکیدم و داد کشتم من لازم توالت حالا چه وقت توالت نرخار رسوشوی حوث توالت کردن افتاده را آسیه که معلوم بود پشت در به حرفهای ما گوش میده به رسید و به بلند گفت بابا میخواد بری مستراح جون بیکن زبون بسته من که نمیدانم تو چه غلطی میکنی بعد به من اشاره کرد به آخر باغ برم زنش از توی اتاق داد کشید آفتابه را نجس نکنه نه بابا مسلمان شده دیگه وقتی حالم جا اومد و به اتاق برمیگشتم تازه متوجه صحنه پر از درخت و با صفای خانه رجب شدم عجب خانه خوبیه حال اینا که چنین باقی دارم. توی اتاق فکرم آزاد شده بود زمین وایس یک نقشه حسابی بکشم. فکر میلیونر شدن از سرم بیرون رفته، فقط دلم میخواست بدون زحمت و ناراحتی از این دام خلاص بشم. بهتری راهی که به نظرم رسید این بود که از این ها و ها صرف نظر کنم و صبح زود قبل از اینکه اهل خانه از خواب بیدار شوند از این خانه و از این شهر بگریزم و به یک دیگری بروم. نمیدانم چه وقت خوابم برد. به صدای نخراشیده یک خروس جنگی از خواب پریدم و از پنجره اتاق به افق نگاه کردم سپیده تازه نمیده بود به سرعت لباسم رو پوشیدم و برای اینکه کسی متوجه نشود با نوکه پا از اتاق بیرون آمدم همینکه از پلهها سرازیر شدم صدای جیغ آسیه مثل ناقوس مرگ در سرم تنین انداخت بابا آلمانیه داره میره بابا بدو رفت توی کوچه ترس از بلایی که در انتظارم بود سراسر سر وجودم را فرا گرفت ای داد اگر گرفتار شوم چه خاکی به سرم بریزم قدم رو را تندتر کردم توی کوچه تکوتوک آدم هایی که به یا به مسجد رفته بودن دیده می شدن. اگر می خودم را به خارج شهر برسانم بقیه کارها جور می شود. از پشت سر صدای امون به گوشم رسید هی hey, هی hey, آقا قدم هایم را تندتر کردم تقریبا به قدم دو افتادم اما صدار امون هر لحظه نزدیکتر می و فریادهایش بیشتر اوج می گرفت. دابد او هم داشت دنبالم میدوید و مرتب داد میکرد رفیق هی برادر دینی کجا میری یواش برو نفسم گرفت ساب کن ببینم واش سالمانی. کم کم بردود داشتم اون ما خیال برم داشت شویدم مرجب خیال میکنه چیزی از خونش دوزیدم اگر ایستادم یک اید داشت اگر فرار میکردم یک عیب دیگه داشت خدایا چی کار کنم تکلیفم چیه وقتی از سربالایی پایین اومدم و چشم به مسجد افتاد، فکر خوبی به سرم آمد. رفتم داخل شبستان و پهلوی شیر بیستادم و مشغول وضو گرفتن شدم. اما رجب که نفس نفس میزد و پشت سرم میدوید از اینکه متوجه شد برای نماز عجله داشتم، خنده بلند کرد. باوجن میخواستی بگی که برای نماز میایی. ما تاصاندی. بعد با خودش شروع به حرف زدن کرد، گرچه بیچاره زبان بلد نیست. من مشغول کار خودم بودم، اما رجب دو سی بار آهسته دستش به پشت من زد. "مرحبا، آفره. چه نوری به قلب این آلمانی تابیده از ما هم مسلمانتر شده و نمازش رو اول صبح میخواند. اما رجب اینقدر توی مسجد من تو نمازی که من به واسه مخصوصی می‌خوندن تموم شد. بعد بازوی مرا گرفت و به خانه‌اش بازگردند. فهمیدم که به این آسانی نمیتوانم از این خانه فرار کنم. اما تکلیفم چیست؟ نمیدانستم. خودم رو به دست سرنوشت پردم و تسلیم حوادث شدم. چند ساعت بعد حضرت آقا با 5 شش نفر دیگر tashr آقا جملاتی به عربی گفت و من تکر را کرده و با ادای شهادت رسم به دین اسلام درآدم البته این دومین باری بود که مسلمان می شدن. حضرت آقا پرسید اسمت چیه؟ را به نفهم می زدن و حضرت آقا به بزرگ فرمود یکیتان زود برید و معلم فرانسه مدرسه را بعد با چند دقیقه معلم فرانسه آمد انگار او همه چیز را فهمیده بود سوال کرد برادر دینی ما اینه حضرت آقا جواب داد بله با ایشام صحبت کنید و ببینید کیست از کجا آمده؟ معلم فرانسه گفت اینها زبان فرانسه را نمیفهمند دانستم که فرانسه صحبت کردن یارو هم مثل آلمانی حرف دادن است خوشبختانه من در مدرسه کمی فرانسه یاد گرفته بودم جناب معلم با تردید پیش آمد و گفت پارلو فرانسه وی گویا او خواست از من بپرسد اسمت چیه ولی اشتباه کرد و پرسید کل ووتر نمرا یعنی نمرا چنده من خندیدم و خودش هم متوجه شد و گفت Pardon. بعد پرسید اسمت چی؟ جواب دادم کارل. یارو رو شکر به حضرت آقا و گفت همانطور که گفتید این آقا یکی از دانشمندان بزرگ دنیاست و میگوید من تمام دیرها را تحقیق کردم و پی بردم که اسلام از همه بهتره. ما فقط دو جمله با هم صحبت کرده بودیم و این آقا داشت این همه شرح و تفسیر به گفته های من اضافه می کرد مردم سادی هم که آنجا بودند از تسلط معلم فرانسه در این زمان ماتم ما شده بودند. آفرین آقا مولا چقدر خوب فرانسه صحبت میکنه؟ احسان به این سواد یکی از هزار که آدم فضولی بود پرسید شما فقط با کلمه باهم حرف زدید. چطور این همه معنی داشت؟ آقا معلم بدون اینکه به خودش بیاره جواب داد: این بسته به فراست و عقل خود آدمه. زبان فرانسه مثل زبان ما نیست که اینقدر طول و تفصیل داشته باشه. هر کلمهش کلی معنی داره. زبانهای خارجی مثل قالب صابون میمونن که یک تکهش یک عالم کف میکنه. من که جلوی خواندن را بگیرم محکم لبهم و گاز میگرفتم معلم مدرسه که معلوم بود از اون ناقلههای روزگاری شروع به خواندن یکی از داستانهای کوتاهی که در کتابهای کلاس دوم فرانسه چاپ کرده بود و مثل بلبل میخواد ژان کیفش را برداشت و مادرش را بوسید و به مدرسه رفت ژانت هم همسایه آنها بود توی راه به دیگر برخوردن و سرگرم گفتگو و بازی شدن وقتی به مدرسه رسیدند زنگ کلاس زره شده بود بعد از هر جمله هم مکسی میکرد و نگاهی به صورت من و من هم برای اینکه گند قضیه بیشتر درمیاد، سرم کردم تکامل دادم و مرکب میگفتم وو موسیو وقتی داستان تمام شد و چنتهی آقا معلم خدیگردین روشو به روزار کرد شنیدید حضرت آقا که ریشش رو با انگشت نشون میزد گفت برای در شما زبان این فرنگی ها رو خیلی خوب حرف میزنید. بله من یک دفعه با یک فرانسوی صحبت کردم یا او حس کرد و حتی خود فرانسوی‌ها هم با من مسابقه بدهند من کسی می‌توانم حرف بزنم که زبان فرانسه تکمیل باشد این شخص آلمانی است و خوب نمیتواند فرانسه حرف بزند حضرت آقا حرفهای معلم را تصدیق کرد و گفت خوب حالا اسم این آقا چیست؟ کارل بسیار خوب پس ما میتوانیم اسم او را کامل بگذاریم همه عزار به درک و فراست و هوش جناب آقا آفرین گفتند و بنده به اسم جدید کامل ملقب گردیدم پس از انجام این مراسم دوباره سروسات شیر میخوری برقرار شد و های پر از شیرینی و مرباجات را توی مجلس آوردند همانطور که در سر مجلس بهقل دست آقا نشسته بودم به فکر فرو رفتم چرا این همه مسلمان و برادر دینی توی مملکت ما ریخته هیچکس به آنها کوچکترین توجهی نمیکنه اما برای من که به خیال خودشون خارجی هستم و تازه مسلمان شدم این همه بیدری خرج میکنند جلسات و مهمانی و سور راه میاندازند خدا کند این خبر به گوش مردم فقیر و بیچیز کشورهای خارجی نرسد والا سیل مهاجرین گدا به کشور ما سرازیر می گردد. صادرات جدیدی به تجارت و اقتصاد فقیر ما اضافه میشود آن وقت این فرد کشور ما هم شلوارش را درمیآورد و به پای آن تازه مسلمان خارجی میکند خیلی تعجب میکنم که چطور تا به حال فرنگی ها به این فکر نیفتادند که بیایند و مسلمان شوند و این همه استفاده ببرند اگر بگوییم از قضیه خبر ندارند درست نیست بارها شنیده و دیدیم که هر وقت یکی از ما توی صندوقخانه منزلش یک حرف پنهان بزن و بچهاش بگوید دو سه روز بعد از رادیو و های آنها پخش میشود پس چرا در این مورد آنها اقدام جدی نکردند لابد یک دلیل مهمی دارد که ما تا کنیم از آن خبر نداریم خلاصه امورجب تمام کار و کاسبیاش رو گذاشته و فقط به من خدمت می کرد. بهترین نوازها را برای این تهیه کرده بود بهترین غذا را برای من آماده می‌کردند و تمام شب و روز یا خودش یا دخترش آسیه و, و مراقب من بودند من هم از آن حرارت و جدیت سابق افتاده و راستش قلبا ناراضی بودم و مه میتوانستم آن خانه را ترک کنم از یک راه فرار برایم بسته بود و از طرف دیگر گلویم پیش آسیه سختگیر کرده بود خواهش میکنم حرف مرا بد تعبیر نکنید علاقه من یک عشق خالص و رومانتیک بود چون هر دا می میدانستیم که موقعیت برای ازدواج ما مناسب است اشکالی در ادامه این دوستی نمیدیدیم اما رجب از نگاهش از رفتارش معلوم بود که علاقه دارد مرا به دامادهش مفتقر کند و به همین جهت هم در خطنه کردن من عجله داشت. آن روز هم پس از خوردن شیرینی مجددن موضوع را تکرار کرد و قرار شد فردا مراسم خطنه به عمل آید. خدای خودت من را از شر این کار حفظ فرما. فردای آن روز خودم را به ناخوشی امو رجب دکتر آورد آسیه و مادرش که من را داماد رسمی خودش من می دانستند بدون هیچ روی درباسی شروع به پرستاری از مکر زد. خدا ذلیل کنه آسیرا. هر وقت چشمش چشم ماش می‌افتاد، چار صدون بدنم می‌لرزید. واه چه چشمهایی چه پوست لطیفی، مثل برگ گل میماند. موهای طلایی رنگش عینا ابریشم خالص بود. وقتی زیر چشمی به من نگاه میکرد و قیافه دخترهای خجولاتی به خودش می‌گرفت، لب‌های قنچه او به قدر قشنگ و دوست داشتنی میشد که آدم بی اختیار می‌خواست بپراد و گازش بگیره. باور کنید اگر به خاطر آسیه نبود یک دقیق تو توی این خانه لعنتی نمی‌ماندم. اما همین عشق بی پیر بود که مرا در آنجا پابند کرد و باعث هم شد. لحظه به لحظه علاقه هم به این غذال وحشی زیاد می میشد. هر کاری می‌کردم او رو اثر ببرم کنام نمیشد که نمیشد. راست گفتند که عشق یک نوع مرض است. من دچار این مرض شده بودم. تسلیم سرنوشت شدم و اراده‌ی گردش زندگی را به دست تقدیر سپردم. هر چی باد آباد به با آسیه ازدواج کنم صاحب 5-6 تا بچه میشیم. زندگی آبرومند تشکیل میده. بعد از 7 سال سابقه زندان مشمول زمان میشه دست زن بچه هم را میگیرم و میرم استانبول زندگی آرامی رو شروع میکنم چه خیالات شیرینی در سر میپروراندم هیهات hey چند روز دیگر گذشت و من پیش از این نمیتوانستم تظاهر به ناخوشی کنم آخر نه داشتم نه رنگ رویم پریده بود خلاصه هرچی دکترها زیر روی تن رو نگاه میکردند و داخل و خارج رو آزمایش میکردند کوچکترین اثری از بیماری وجود نداشت بعد اینجا بود که این بیماری دروغي نه تنها کمکی به حال من نکرد بلکه وضع بدتر شد و امورجب تصمیم گرفت گرفت مجلس ختنه‌سوران مفصلی برای من بگیرد حتی کارتهای جشن رو هم چاپ کردند و تاریخ آن را تعیین کردند و استاد ختنه‌کن رو هم خبر کردند این استاد در اون شهر کوچک همه کاره بود موازه سلمانی داشت هجامت می کرد کارهای معاملات املاک انجام میداد، گاهی اوقات صیغه عقد هم جاری می کرد. وقتی او را شناختن درم کمی وارام شد مطمئن بودم که اینجور آدمها در مقابل پول حاضرند هر کاری را انجام بدند و چون در این مدت رجب هر روز میخوره پول توی جیب لباسهای من میگذاشت تصمیم گرفتم پنجاه لیره پس انداز کنم و به استاد سلمانی رو اشوه بدهم تا مرا ندید بگیره با این ترتیب کار ما به خیر و خوشی میگذشت و مراسم عقد و عروسی من انجام میگرفت و اگر بعدها استاد سلمانی چیزی به کسی میگفت مردم باور نمیکردند روز جشن قدس سوران هنگامه‌ای عجیبی بود. انگار تمام مردم شهر را دعوت کرده بودند. خدایا این سر و اسباب زحمت من نشه. میخواستم از اما رجب خواهش کنم که کار را اینقدر بزرگ نکند، ولی چه جور و با چه زبان؟ نمیدانستم ترشیدم گند کار بیشتر در بیاد. دیگه های بزرگ پولا رو رو روی اجاقها گذاشته بودند. بدره‌های بزرگ به سیخ میکشیدند و دود کباب تمام فضای خانه را پر کرده بود. مهمان ها توی چهار پنج اتاق مشغول شیر خوردن و شادی بودند. در داخل یک اتاق بزرگ، استاد سلمانی داشت وسایل کارش را آماده میکرد اما رجب با عجله و عرقیزان از در وارد شد و گفت: یک آدم از استانبول آمده با شما کار داره مثل کسی که با یک تیکه آهن سرخ کرده تنش را داغ کنند، سر تا پایم سوخت. چیزی نمانده بود همونجا بیوفتم. این کی از استانبول به دنبال من آمده؟ نکنه ولای جدیدی رسلم بیاد؟ اما رجب بیچاری که گمان میکرد من از ترس ختمی شدن به این حال خیلی دلش توخت. مثل اینکه شما از ختمی میترسید نه هیچ ترس نیست پرسید این آقا بیاد به قدی ترسیده بودم که نتمندستم جواب بدهم و با سر اشاره مثبت کردم اما رجب رفت و من نگاهی به پنجره انداختم میخواستم فرار کنم اما از کجا و چطور کار از کار گذاشته و هیچ راه و نبود نصو گوشتم آب شد تا یارو داخل اتاق شد مرد جوانی بود که لباس مرتبی پوشیده بود از قیاسهٔ خندانش فهمیدم پلیس نیست کمی دلم آرام گرفت ولی حرفی نزدم و صبر کردم ببینم چی کار داره او لبخندی زد و گفت من خبرنگار مجله اصر هستم اگر میگفت ازرائیل هستم اینقدر نمی شدم این همون بلایی بود که من همیشه ازش فرامیکردم خدای خودت مرا از دست این خبرنگارهای سمج نجات بده تظاهر به نفهمیدن کردم او منظورش رو با اشاره گفت من آمدهم از مسلمان شدن شما و مراسم خطنه عکس و خبر تهیه کنم با لحن خارجی ها جواب دادم من خوب ترکی بلد نیست خدا را شکر که آقای مخبر غیر زبان مادریش هیچ زبانی بلد نبود و به تقلید من پرسید شما چه اختراع و کشب بزرگ کرده اید خیلی دلم میخواست با لحظه خود ما میتوانستم به یک جواب بدهم من کشف کردم آدم‌هایی که از اول مسلمان بودند هیچکس بآنها با اعتنا نمی‌کند اما برای یک نفر مسلمان دروغی هزارها احمق مثل تو پول و وقتشان را صرف می کند ولی با هر زحمتی بود خودم را کنترل کردم و جواب دادم من خیلی کشف زیاد موتور طیاره بی‌صدا کشتی بی‌دودکش اتومبیل بی‌چرخ خبرنگار چشما شور تا شد و مرتب سرش را تکان می‌داد و کلمات به و آفرین و احسن از دهانش در این موقع دو نفر وارد اتاق شدند و با اشاره به من فهماندند که برای انجام مراسم ختنه بروم با قدمهای محکم به طرف اتاق مخصوص را افتادم و در این فکر بودم که چجوری با استاد سلمانی سر صحبت را واه کنم و با پرداخت رشوه سراتی قضیه رو به هم بیارم هنگامی که وارد اتاق مخصوص شدم دود از کله هم خارج شد غیر از استاد سلمانی هشت نه نفر جوان گردنکلفت و هم آنجا بودند از استاد سلمانی پرسیدم اینها اینجا چرا باید باشم دست و پای تو را بگیرم نگاهی به در اتاق کردم به سرعت را افتادم استاد سلمانی پرسید کجا؟ و اشاره حالی کردم که بیرون از اتاق کاری دارم استاد سلمانی گویا به دو سه نفر از جوانها اشاره کرد و آنها مثل پهلوانهای توی گرد زورخانه با یک جست به جلویم پریدند و دستهایم را گرفتند و محکم نگه داشتند اکاسباشیک تند و تند شروع به عکسبرذری کرد و من تلاش میکردم خودم را از دستانها خلاص کنم. ولی جوانها مثل گوسفند سلاخی مرا روی هوا بلند کردند. از قیافه آنها معلوم بود که همونجا وسط اتاق میخواند خاتم کنند شروع به دارو فریاد کردند. پدرزانم زنم هراسون داخل اتاق شد و گفت: نه ترس چیزی نیست. استاد سلمانی خیلی دستش تابه که فوری راحتیت میکنه. جوانها کشان کشان مرا به طرف تخت خوابی که در گوشه اتاق بود بردند. من داشتم توی هوا دست و پا میزدم و استاد سلمانی میداد. من تا حالا چهل پنجاه تا جدیدولستان روی خاتم و کاری می کنم که اصلا نفهمید. من توی دست و پای ها به قضیه زغله کرده بودم که از حال رفتم و نفسم به شماره افتاد. در همان حال بیهوشی و ایقما صداهای درهم و برهمی به گوشم رسید و چند نفر با صدای بلند و قлиз داد می‌کشیدند. سبحان الله جل الخالق. همه به طرف بیرون می‌دویدند و من تعجب کردم که موضوع از چه قراره. تمام حواسم رو جمع کردم تا بفهمم موضوع چی. پشت در اتاق مرد سلمانی داشت قضیه را تعریف می‌کرد. این بابا مادرزات ختمه بوده. پدرزانم با خوشحالی داد کشید شکر یکی دیگه داد کشید مگه همچه چیزی ممکنه؟ بله خیلی خوشحال شدم خطر به این بزرگی از سرم گذشته بود عسع ای نداشتم. اما مگه آدم های فضول میگذارن آب خوشحال که آدم پایین بره. یک نفر پدر و مادردار گفت ممکنه یهودی باشید این جمله مثل توپ توی مردم صدا کرد به خصوص که چند نفر دیگه حرفه رو تایید کردن. بله ممکنه؟ باید حواسمون رو جمع کنی بازم خدا پدر مردی با سلمانی رو بیمه مرزه که جوابشان را داد. من الان قضیه را رو روشن میکنم فهمیدم که باز خیال دارن حمله رو شروع کنم قبل از اینکه وارد اتاق بشم خودم رو به خواب دادم. این دفعه مرد سلمانی تنها آمد تو. دیدم دیگه بیشتر از این نمیشه سکوت کرد. به زبان خودمون و خیلی شمرده گفتم خواهش میکنم در رو محکم ببندید. سلامون بیرون نره. مرد سلمانی حاجاواد شد. حق هم داشت. کسی که تا به حال آلمانی بوده و زبان ترکی نمیدانست یرففه عوض شد مخص از اتاق فرار کنه صداش کردم نه تسباب من دلو خورخوره نیستم بیا جلو کارت دارم بعد فوری پنجاه لیره را که برایش کنار گذاشته بودم از جیبم درآوردم و جلوش گرفتن بیا اینو بگیر و دور ما رو خیت بکش من سلمانی خنده ای کرد ای حقباس باز خوب راهشو یاد گرفتی پول را توی جیبش گذاشت باید یک کمی سر صدا راه بیادازی که خیال کنم خطنه میکن دیگه کوتاهی کشتم نشود بلندتر هر داد داشتم توی گلو من انداختم آه پدرم در اومد توی تخت و و در را باز کرد تمام شد عکاس‌ها و خبرنگارها ریختن توی اتاق و فلاشها پشت سر هم روشن شد و سوالهای عجیب و غریب از من میکرد. من خودم رو به بی‌روشی زدم و اصلا جوابشون رو ندادم با این حال خبر قضیه مثل توب در شهر سی دو کرد خیال نمی‌کنم تیراژ ها مثل آن روز بالا رفته باشه عکس‌های من را در صفحه اول چاپ کرده و تیترهای عجیب و غریبی نوشته بودند. یک آلمانی جوان مسلمان شده. جشن ختنه سوران پروفسور معروف آلمانی با شادی و سرور به پایان رسید. جنبش بزرگی که در دنیای اسلام رخ داده. با این وعده فاجعهی بزرگی برای من بیچاره در حال تکویل بود و من هر لحظه منتظر رسیدن این بدبختی بودم. هنوز آفتاب غروب نکرده بود که فاجعه آغاز گرفت. سه تا پلیس وارد خانه شدند و سراغ مرا گرفتند. به محض اینکه وارد اتاق شدند خندهٔ تمسخر آلودی کردند بلند شو زود باش لباست رو بپش دستمن به دستم زدند و در میان چشمان حیرتزادهٔ پدرزنم و آسیه و همسایه‌ها مرا از خانه بیرون بردند آسیه کنار دیوار ایستاده و آرام گریه میکرد پدرزنم مثل آدم های برق گرفته خشکش داده بود همسایه‌ها ها پچو پچ مثل اینکه جاسوس بوده من از روز اول فهمیدم پدر چه کارهایی میکنند این پدرسوخته آدم از ما ساده تر پیدا نکرده آلمانی بودنش هم دروغ بود بله حتما انگلیسیه من را یک راز به شهربانی بردند و چون دیر وقت بود بدون بازپرسی توی یک اتاق مرطوب و تاریک انداختند فردا صبح برای بازجوی من قلغلا و سر صدای زیادی را افتاده بود باز هم ارکاسها و خبرنگارها سوژه داغی پیدا کرده و برو بیای را انداخته بودند عکسبرداری شروع شد و من هرچه سعی میکردم صورتم رو مخفی کنم پلیسها چانهم را میگرفتند و سرم را بالا نگه میداشتم رئیس از من پرسید پدر سوختو این موقع بازی ها چییه که میکنی من تقصیر ندارم رئیس یک جفت کشیده به صورتم زد که برق از چشمم پرید پس کی تقصیر داره پدر سگ کلاهبردار بردار خودو تو آلمانی معرفی کردی برای چی هو جناب آقای رئیس من که آلمانی بودن در قانون جرمه رئیس ختف مرا زود جمع کرد و به دو نفر که بالای اتاق نشسته بودند اشاره کرد آقایان متهم در اختیار شماست آن دو نفر که بعد معلوم شد کاراگاهند و از استانبول آمدند شروع به بازجویی کردند بهتری راستشو بگی منظورت از این کار چی بوده من تمام غذایا رو از سیر تا پیاز گفتم همه شروع به خنده کردند معلوم بود حرفهای رو باور نکردند به همین سادگی خودت را آلمانی معرفی کردی تا یک شکم سیر غذا بخوری باور کنید هیچ منظوری نداشتم داشتم از گرسنگی میمردم آدم حسابی تو این مملکت کی از گرسنگی مورده که تو دومیچ دو باشی نمیدانستم چی جوابی بدم قضیه را به جایی کشانده بودم که اگر من هر جواب میدادم، حداقل به ده سال زندان محکوم می شدم ناچار سکوت کردم یکی از معمورها دستور داد پدرزنم و آسیه را برای مواجه اتاق بیارم شروع به التماس کردم آقا منو اعدام کنید به زندان بفرستید اما خجالتم ندید واقعا همینطور بود چون روم نمی شد به صورت امور رجب که با کمال صفا و صداقت منو در خانهاش جا داده بود نگاه کنم. اما چاره نبود. درزنم وقتی وارد اتاق شد یک راست به طرف هم آمد جون ایستاد نگاه به قدم بالام کرد توف برود هر آمزاده نمک شناس بی شرف بی آبرو اگر معمول ها جلوو نمیگرن همانجا خبر هم میکرد. کاراگاه پرسید: شما از این آقا شاکی هستید؟ بله خدا ذلیلش کنه که آبروی منو برد شرافت منو لکهدار کرد سه هزار لیو برایش خرچ کردند باید تمام خست منو بده بعد آسیه را آوردم. دختره دخترک از بس گریه کرده بود چشمش باد کرده و سر شده بود کاراگاه پرسید دخترم تو هم از این کلاهبردار شاکی هستی نه اما رجب با تعجب به دخترش نگاه کرد تو شاکی نیستی نه خیر چیکار کردی که شاکی باشم دیگه میخواستی چیکار کنه سر ما کلاه گذاشته او تقصیری نداره مادرت گفته که گوشواره و تو رو دزدیده تو تورو گول بزنه دروغه او هیچی به من حرفی نزده شما میخواستید منو به او شوهر از وفاداری او سرم گیج رفت بغز توی گلون گیر کرده بود برای اینکه اشکی چشمای را ندینه صورتم رو به طرف دیوار برگرداندم اما رجب با لجبازی جلو حرف دخترش رو گرفت این نمیفهمد بچه از گل خورده بعد هم آسیه را از اتاق بیرون بردند لای که باز شد سر و صدای زیادی از بیرون شنیدم انگار تمام مردم شهر برای شکایت از من جلو شهرماینی جمع شده بودند یکی میگفت هزار از من گرفته اون یکی میگفت صد از من نستیه برده در صورتی که من هیچ رو نمی شناختم و اصلا روشان رو ندیده بودم چون جور من خیلی زیاد بود و وعضا مشکوک به نظر میرسید تصویب شد که من مرا با مناورین محافظ و مسلح به استانبول بفرستند در استانبول هم پرونده ای من با سرعت رسیدگی شد و از پله ها پایین رفتم توی زندان همه در این فکر بودم که پس از آزاده یک کار آبرومند پیدا کنم و بیشتر مواظب باشم پام توی طله یک روز یک زندانی ناشی را ما آوردند وز او با مشتری های زندان خیلی فرق داشت. بازی ظاهری و قیافه آرام موقرش نشان می‌داد که این کاره نیست. و اولش که به زندان اومده. خیلی زود با هم آشنا شدیم. اسمش واسیل و تاجر بازار بود. تجارت زیتون و روغن زیتون داشت و از همان لحظه که وارد زندان شد، در کیسه را شل کرد و مثل ریک پول خرج می‌کرد. نون من توی روغن افتاد و خورد مرتب شد. شام و, و از منزلش میآوردند و هنوزم که هنوزه مزه غذاهای لذیذ اون زیر دندانمه. من هر چی ازش پرسیدم جرمش چی چیزی نگفت ولی من از سیر تا پیاز جریمی زندگیم رو براش تعریف کردم. واسیل آدرسش رو به من داد و گفت هر وقت آزاد شدی بیا پیش من کارت دارم گرچه نمی‌شد های را که زندانیها به آدم میدهند باور کرد ولی چاره نداشتم. آدرسش رو گرفتم و پس از سه ماه بلا تکلیفی که از زندان آزاد شدم یک راست پیش واسیل رفتم. واسیل از من به گرمی پذیرایی کرد. در یکی از خیابان‌های بزرگ استانبول مغازه داشت. توی مغازه‌اش حلب‌های روغن زیتون را رو تا سقف چیده بودند. واسیل سر لیره به من پول داد و گفت: برو سه روز دیگر بیا مشغول کار شو." چون مدت ها بود که من به آدم خوب و رو روبرو نشده بودم، از این کار واسیل خیلی تعجب کردم. باورم میشد که او توی مغازش به من کار بدهد. ولی حقیقت داشت. من به نام حسابدار در مغازه او مشغول کار شدم. دو سه ماه گذشت. من هر روز از روز پیش بیشتر در کارم مسلط می شدم تمام کارها را یاد گرفته بودم. دیگه هیچ احتیاجی نداشتم. واسیل هم بهم دستور بده. خودم هم رو به خوبی انجام میدادم خیلی خوشحال بودم که زندگیم سر و سامانی گرفته و منم میتونم مثل سایرین بدون دقدقه و ناراحتی لقمه غذا بخورم و شبها راحت بخوابم یک روز واسیل مرا رو به خانهاش دعوت کرد خوراک مفصلی تهیه دیده بود مرغ ماهی پلو. وقتی ناهار رو خوردیم واسیل گفت در این مدت من تو را از هرجهت امتحان کردم و مطمئن شدم آدم قابل اعتمادی هستی قند توی دلم آب شد ببینید وقتی آدم درستی نشون بده خوبه کاش اون رفیقم که میگفت در این مملکت هیچکس از درستی به جایی نمیرسه اینجا بود و میدید واسیل از من چقدر راضیه واسیل ادامه داد من میخوام درستی و خوبی تو را تلافی کنم و مغازهم را به تو انتقال بدم به نظرم رسید که ارباب یا مرا مسخره میکنه یا میخواد بازم امتحانم کنه با خجالت جواب دادم مغازه مبارک خودتون باشه من همیشه مستخدم شما هستم و خواهم بود وسیل متوجه شد شوخی نمی کنم جدا تصمیم دارم آغازن را به تو منتقل کنم چرا می خواد این کارو بکنید؟ به تو کاملا اطمینان پیدا کردم بچه هم خیلی ویل خررج به دامدمهم اتینا ندارم و چون تصمیم دارم مسافرت به می خوام دست و باره در کارها آزاد باشه و مستقیلا بتونی کنی. البته من فقط نظارت خواهم داشت خیلی حرف اززت من نتونستم منظورش را درست بفهمم و بدونم که این کار چه نفی برای او و چه استفاده برای من داره؟ چون باز هم تمام منافع مال خودش میشد و من باز هم همان حقوقبگیر سابق بودم واسیل گفت برای این کار ماه پنجاه لیره حقوقت را اضافه میکنم تو در عوض برای حرف مردم و پیشامد روزگار یک صد ده هزار لیرهای باید بهبند بدی یک وقت خدای نکرده شیطان گولت نزنه هر چی فکر میکردم که این کار یعنی چه و چرا واسیل مغازهاش را به من منتقل میکنه چیزی سردر نمیآوردم خوب میدانستم که زیر این کاسه, نیم کاسه است و یک کلکی توی کار هست اما موضوع چیه نمیفهمیدم آخر من که سرمایهای روی این کار نمی نمیگذاشتم که از دستم بره هیچ ای با هم در این ظاهر معامله دیده نمیشد خصوص که ماه پنجاه لیره هم به حقوقم اضافه گردید الله و بخت نباید به شانسم پشت پا بزنم فردا صبح محظر رفتیم واسیل مغازش را به شش هزار لیره به من فروخت و در مقابل یک سند ده هزار لیره از من گرفت و من ظاهرا مالک مغازه شدم فورا تابلوی مغازه را پایین آوردن و تابلو جدی به نام تجارتخانه اعتماد صادرکننده روغن زیتون به جای آن گذاشتند در همسایگی ما یک تاجر روغن دیگه بود به نام حاجیسالح ظهر آن روز که واسیل برای نهار رفته بود پیش من آمد و پرسید در مقابل واگذاری مغازهاش چقدر به حوق داد ماهی پنجاه لیره پوف عجب کلاهی ساعت گذاشته اگر مغازه مرا قبول میکردی ماهی پانجسد لیره بهت میدادم حاجوات شدم و پرسیدم چطور سرم کلا گذاشته گذاشته ها گذشته اگر حاضر مغازه من رو هم قبول کنی مایی پان سال لده بهت میدم آخه چرا شماها ها مغازه رو به من منتقل میکنید خنده بلندی کرد آدم صاف و ساده هستی یا منو مسخره میکنی چرا مسخره کنم خودت میفهمی اینو گفت و از مغازه بیرون رفت شوری در دلم افتاد خدا یا خدا و دیگه چه بدبختی در انتظارمه چرا مردم نمیگذارم من یک روز آسوده باشم. مگه من به مردم چی کار کردم که هر کس من میبسه میخواد پامو توی یک سوراخ بندازه. چند روز بعد واسیل به بهم گفت فردا باید در یک مناقصه شرکت کنی. قبلا من اوگاهی مناقصه در روزنامه‌ها خیلی دیده بودم ولی توجه نمیکردم و کار به این کارها نداشتم سوال کردم چه مناقصه ای؟ مصرف مصرف مصرفی ما رو چی به این کارهای بزرگ؟ واسیل خندید. من تو این کارهاست تو عقلت من بلد نیستم و نمیدانم چه کار باید بکنم با هم میریم تا هم یواشیواش راغ کارها را بلد میشید فردا رفتیم توی کمیسیون غیر از ما چند نفر دیگرم بودند من بیشترشان را حاجی حاجیساله همسایه ما هم شرکت کننده ها بود پرسش نام های مناقصه را توی پاکت های سربسته گذاشته بودند و مقدار سی تون روغن را رو باید در مدت معینی تحویل دهیم کس که قیمتی کمتری میداد برنده شناخته میشد آن روزها روغن را رو از قرار کیلوی 120 و بیست خریدیم و كیلو 150 تا صد و شست غروش فکر کردم که اگر صد و سی بنویسیم در کل معامله 150 هزار لیره سود میبریم و اولین پایه میلیونر شدنم گذاشته می شود واقعا سرنوشت رو ببینید راست گفتن جوینده بنده است من از روز اول همش در این فکر بودم که یک روز میلیونر بشم حالا بعد از این همه زیر رو رفتن و مصیبت کشیدن شانس داشت به رویم میزد واسیل که کنارم نشسته بود پرسید چقدر میخواهی بنویسی كیلویی صد و سی قروش مگه دیوانهای فکر کردم کم گفتم صد و چهل قروش چطوره واسیل خندهی تمسخرآمیزی کرد به طوری که سایرین متوجه شدند و من خیلی خجالت کشیدم اگر ما قیمت رو زیاد بنویسیم دیگران برنده میشد سرش را جلو آورد و آهسته گفت 80 قروش بنویس فکر کردم منظورش 180 و هشتاد گفتم به نظر من 180 و قروش خیلی زیاده چشمهاش گرد شد صد و هشتاد تا چیه؟ هشتاد تا بنویس حالا نوبت من بود تعجب کنم. چطور ممکنه ما صد و بیست تا میخریم تو بنویس چیکار داری مثل اینکه صاحبمال من هستم قلم رو از روی کاغذ برداشتم خیلی ضرر میکنیم تو بنویس کارت نباشه به من مربوط نیست به مگوی ما بالا گرفت واسیل گفت تو متعهد هستی و باید بنویسی به صدای بلند گفتم آخه آدم عاقل که دانسته نباید مالش را دور بریزه بابا من ضرر میکنم به تو چه مربوطه این حرفش درست بود و با اینکه دست و به کار بهکار نمیرفت قیمت رو کیلوی هشتاد غرش نوشتم و توی پاکت گذاشتم وقتی پاکت ها رو باز کردن من برنده شده بودم مبلغ سپورده رو به صندوق دادیم و قبض گرفتیم سایرین به واسیل تبریک گفتند یکی از اونها به واسیل گفت اگه منم یکم شیرمردی مثل فرید داشتم به جای هفتاد قرش چهل قرش مینوشتم من از این حرفها هیچ نمی آوردم از کمیسیون که خارج شدیم از واصل پرسیدم تو رو به خدا بگو ببینم چطور ممکن آدم جنس را 120 تا بخره و هشتاد تا بفروشه با حرف زدن نمیشه بعدها خودت میفهمی آخه اینکه مسئله اتم نیست این معامله چهیل قراش ضرر داره ضرر نمیکنه فقط سودش کمه ما شروع به تحویل روغن ها کردیم اما هر کیلو روغن مقدار زیادی ضرر داشت هرچی فکر میکردم از این معامله سردره می آوردم و نمیتونستم این معامله حرف کنم یکی از واسیل مقداری سیب زمینی خرید. اونی های سیب زمینی را که به انبار می بردن پرسیدم اینها اینا برای چیه؟ خنده ای کرد و جواب داد میخواهم تجارت سیب زمینی بکنم. از فرداشب کامون های سیب زمینی را پشت سرهم می آوردند و توی انبار می برد. انگار این سیب ها را روی سر من انبار میکرد. مغزم داشت میترکید و از خود پرسیدم این همه سیب زمینی را کجا انبار می با اینکه قراره کرده بودم من وارد انبار نشم. یک روز سرزده رفتم تو و همه چیز بران روشن شد پسر واسیل ها را توی دیگهای بزرگ میریخت و به صورت خمیر در می آورد و بعد هم چیزهای داخل آنها میزد و با روغنها مخلوط می کرد اینقدر شعور داشتم که بدانم این کار جرمه و اگه بفهمم پدرمون درمیارم گفتم برادر من نیستم من اگه خواستم تقلب کنم کارم به اینجا نمیرسید واسیل اول دست و پاشو گم کرد و بعد خیلی عادی جواب داد این کار کجاش تقلبه؟ تقلب مگه شامل داره؟ سیب زمینی به جای روغن فروختن تقلب نیست؟ نه، سیب زمینی برای بدن انسان ضرر نداره، خیلی هم مفیده. پسر واسیل شروع به تعریف از محسنات سیب زمینی کرد. این گیاه مفید شامل نشاسته، گلوکز و مقدار زیادی روغنه. واسیل دنبال حرف پسرش افزود این که مهم نیست، آلمانی ها از روغن گوش درست میکنند از استخوان شکر سازند و از تخته آرد دست می آورند. انگار پدر و پسر برای روزی کردن من مسابقه گذاشته بودند چون پسره دنبال حرف پدرش رو گرفت حالا که علم شیمی به این پایه رسیده ما چه را استفاده نکنیم حرفای اینها از نظر علمی درست بود و من یواش یواش داشتم تسلیم می شدم واصل که دید نم شدم یک چیزی هم تلکار شد ما آدم های باشرفی هستیم و جنس بعد دست مردم نمی دید. اگر این مناقصه را توجار دیگه می بردن نمی ما آدم خوبی هستیم و از ترس خداوند گناه نمیکنیم. پرسیدم: مثلا چی ممکنه داخل روغن بکنند؟ سرش تکان داد و صدای مخصوصی از دهانش بیرون آمد بح. نمی دانی دیگران با گل سفید و پی و وازلین روغن می سازد. همین حاجستانه یک وقت روغن ساخته بود که مردها را از مرده انداخت. تمام دکترهای بزرگ دنیا بهش مراجعه کردند تا فرمول این دوا را بگیرند اما بیچاره خودش هم نمیدانست چه چیزهایی توی روغن مخلوط کرده. اگه فراموش نکرده بود میلیونر میشد پسر واسیل با غرور گفت ولی کار ما روی حسابه و تمام موادی که داخل روغم میکنیم معلومه واسیل ادامه داد ما با باشرفی هستیم اگه باور نمی کنی برو توی بازار سوال کن اعتبار و شخصیت ما رو از سایرین بپرس هیچکس یک میره از ما طلب نداره سی سال من توی بازار هستم و تا به حال یک اجرایی برایم صادر نشده گفتم همه اینها درست ولی ولی چی خریدار میداند که شما سیب سیبزمینی داخل روغن میکنید واسیلو و پسرش با صدای بلند خندیدند من نمیدانستم تو این قصف و ساده هستی پس چی که میدانی مگه ممکنه نفهمه که روغن ما خالص نیست از کجا میداند؟ او عزیز من اونها هم لابد روغن میخرند و میدانند که روغن خالص را کلوی دولیره هم نمیدن پس علمتش چیه که ما 80 گروش میدیم مسلمان آرد و سیب زمینی و این سیبز باز خدا پدر من رو بیا که روغن گلیس توش نمیریزی. دیدم درست میگه و ضرر که نباید بکنه پرسیدم چرا اصلا ما این قیمت نوشتیم؟ تو به این کارها کارت نباشه و از فردا علف بر حقوقت یک سخمم از درآمد روغنها بگیر چاره جو سکوت نداشتم اما دلم هم راضی نمیشد از این کار دست بکشم میدانستم که اگر سر و صدای را در بیارم نه تنها نداره؟ بلکه هزار اشکال پیش میاد که اولیش بیکار شدن منه بعد از اون روز واسیل هر روز صورت حساب را پیش من میآورد روغنهایی که هفته اول تحویل داده بودیم خالص بود و به همین جهت 500 لیره ضرر کرده بود و همینطور هر هفته مقدار سیب زمینی زیاد شده و زررها کمتر شده بود واسیل گفت دیدی ما بدون نظر تو کاری نمیکنیم به این صورتها رو امضا کن من تردید کردم و نمیخواستم امضا بدم واسیل خوندهای کرد ما به تو اطمینان کردیم تجاردخانه به این بزرگی را بهت واگذار کردیم تا هم به ماتونن داشته باشه امضا کن کاش دستم شکسته بود امضای بی و رو پای اون ورق ها نمیگذاشتم واسیل از امضای من خیلی خوشحال شد میبینی که تا امروز استفاده نکردیم، ولی البته بعدها خیلی خوب میشه فرید از بس که هر زده بود دهانش کف کرده بود خیلی وقت بود پشت سر هم برایم تعریف میکرد سیگاری آتش زد و نگاه سنگینش را تو چشمام دوخت شاید باور نمیکنی که هرچی تا به حال گفتم عین حقیقت بوده شاید خیال میکنید من روحا اون آدم درستی که ادعا می کنم نبودم و از این معامله واسیل خوشحال شدم نه، به خدا از این پیش هیچ راضی و خوشحال نبودم اما حرفهای واسیل طوری بود که هر کس فرید می میخورد و باور می کرد امسال واسیل کارهای خودشان را درست میدانند اگر کسی با آنها بگوید بیشرف شکمش را پاره میکنند اینها آدمهای با هستند در بازار و پیش همه کس آبرو دارند، شخصیت دارند و دیگرها هم با اینکه چی دانند چیکارن آنها احترام میگذارن اغلب اینها نمازشان ترک نمیشه. کم کم کار از سیب زمینی گذشت، پی و دممه هم اضافه شد. رومن که تحویل میشد 80 درصد مخلوط خارجی داشت. درمانده شده بودم راهی به جایی نداشتم. رفتم پیش پسر حاجی ساله و یاشیکی قضیه را به او گفتم. میخواستم از او چیزی بفهمم، و روح پیشی پای من بگذارد. پسر هاجستانه شروع به خنده کرد. خدا آخر و عاقبتت رو به خیر کنه. مثلا چی میشه؟ هیچی. نر راسته نکنه گندش در بیاد. بگو ببینم چی حق نگیری تا حالا که درآمد نداشتی اما بعدها ها بلندتری زد و ایشالا درست میشه ولی اینقدر صاف و ساده نباش. از حرفهای پسر هاجیساله ترسورم داشت او طوری حرف میزد که معنیش خیلی چیزها بود تصمیم گرفتم کارم را با واسیل کنم. کنم هرچی باشد بیکاری بهتر از این دزدی و تقلبه اما این فرصت پیش نیامد و پسر حاجی ساله که جریان را فهمیده بود به عرض مقامات ارتش رسانیده بود و روز بعد یدنی بیچاره را که مسئول مغازه و طرف معامله ارتش بودن توقیف کردم و یک راست به زندان بردم. بعد از اون فقط یک بار روی واسیل را رو دیدم آن هم توی دادگاه بود چون او هم سند مرا به اجرا گذاشته بود و مجبورم کردن مغازه را پس بدهم و سندم را بگیرم نمیدانید ها چه عکسه و مطالب عجیب و غریبی از من منتشر کردند افسر قلابی مسلمان قلابی تاجر قلابی خلاصی تهمتی نبود که به پای من بیچاره نبستند با این حال چطور می میتوانستم بگویم بیتقصیرم به هرکس گفتم وایلا، بلا من تقصیر ندارم میخندید یکیش گول خوردی دوتاش نفهمیدی بقیه چی؟ حقیقت هم همین بود بلاها و بدبختی ها پشت سر هم می رسید پیشور و نارحتی روحی من به جای رسیده بود که اعصابم درست کار نمیکرد از زندانی ها دوری می کردم. همیشه با خودم حرف میزدم توی اتاق توی حیات دستها متکان می دادم و بلند, بلند بلند با آنهایی که باعث بدبختی من شده هم دعوا می کردم بعضی وقتها متوجه می شدم و خودم به کنترل میکردم اما دوباره حل شروع می شد کار به جایی رسید که حتی شبها توی خواب هم این کارها را میکردمد و صداهای عجیب و غریب از گلوم در میآمد روزهای اول زندانیها به هم می میخوندیدند و اسبار مسخری آنها شده بودمد اما حوصله آنها هم سر رفت و به رئیس زندان شکایت کردند هر شب اتاق مرا عوض کردند و توی هر سلول بیش از یک یکشب نمیگذاشتند به بالاخره هم مرا به تیمارستان فرستادند درسته که من خراب بود ولی هنوز اینقدر عقل داشتم که بتونم خیلی چیزها را تشخیص بدم به همین جهت از وضع جدیدم زیاد ناراضی نبودم. توی تیمورستان هم آزادی بیشتری داشتم و هم چیزهایی ندیده و تماشایی خیلی زیاد بود که منو مشغول کند. توی تیمارستان با پیرمرد دیوانی آشنا شدم که او هم داستان عجیب و غریبی داشت. این مرد قبلا وکیل دارگستری بوده. زندگی و درآمدش خیلی خوب بوده اما بدبختی آقاش را میگیره و به مرض انتقاد کردن دچار میشه. هر روز جان فشت نامه برای بزرگان مملکت نوشته و مشکلات مردم و اشتباهات آنها را تذکر می‌داد. این کار هفت هشت سال طول میکشه و بالاخره یک روز هنگامی که نامه‌ای را به صندوق پست می‌انداخته دستگیر می‌شه و به جرم توهین به بزرگان مملکت اول به زندان و بعدش هم به تیمارستان می‌افتاد. او هم مثل من بود، هیچ اثری از دیوانگی در کارهاش نبود. پرسیدم چرا این کارو می‌کردی که از خود زحمتت بشه؟ اگر از اینجا نجات پیدا کنم بازم می نویسم. آخه این کار چه نفی برای تو داره؟ بهعاقل عقدههایی دلم که خالی میشه تو نمیذاری این رو عص و بزرگان چه بلاهایی به سر من آوردن چه حق کوشی هایی کردم بلایی که سر هزار نفر ممکنه بیاد به سر و تنها آمده بود اینقدر حرفهای عجیب و غریب میزد که من هم کم, کم با عاقل بودنش شک پیدا کردم و گفتم عباس آقا مثل اینکه خیلی قلو میکنی. تمام مردم که بد نیستن چرا جون تو؟ من به هر کسی رسیدم میخواد سرم کناه بگذاره چطور؟ همه مردم برای بدی کردن به تو با هم مسابقه گذاشته بودن؟ خنده ترخی کرد آره به مرگ خودت بازی فوتبال رو تماشا کردی؟ دیدی بازیکنها چطور توپ را به یکدیگر پاس میدن و توپ جون هرکس هر کس که میرسه کن. چطور با لگت محکم بهش میزنه؟ منم درست مثل توپ فوتبال شده بودم صدای پخمی قمالودو و گرفته شد یک کمی نکس کرد و دوباره ادامه داد گاهی انسان در زندگی به یک حکوشی های دچار میشه که کنترل اعصابش از دست میده مثل مست ها که دلشون میخواد هر کس را گیر میارن عقده دلشون رو پیشش خالی کنن او هم میره پیش که از دوستانش که دردشو بگه اما اون شخص فکر میکنه این آدم که تلوتلو تلو میخوره ممکنه بیفته و اسباب دردسرش بشه برای نجات خودش یک لگرت به او میزنه تا از خودش دورش کنه وقتی هم لگت خوردی بیشتر کنترل اصابتو از دست میدی با این حال خراب میری پیش یکی دیگه جریان را بگی و از دوست اولی گله کنی دومی محکمتر بهت لگت میزنی میری از سومی کمک بگیری اون میگه حتما علتی داشته که اولی ها زدنش پس باید اینو با لگت دورش کرد حساب چهارمی و پنجمی و ششمه پاکه چون تا میخوای قضیه را بهشان بگی و از رفقای بیوفا گله کنی چنان با لگت می که صد متر انورتر میخوره زمین اون وقتی که آدم دیگه همه چیزش رو زیر پا میگذاره دوستی شرافت وجدان، حتی عقلشو و یکدفعه خودش به دیوانگی میزنه حرفهای او توی مغز من مثل پتکی بود که روی آهن گداخته میزدند و اونو به اشکال مختلف در درمیارد این آقای وكیل با اینکه ظاهرا دیوانه است و توی تیمارستان به زنجیرش كشیدند چه حرفهای گندهای میزنه و با هر حرفش و هر مثالش من یاد یکی از خاطرات گذشته هم می افتادم چقدر مثال های خوب حرف از این حسابی تر نمیشه. بعضی آدم ها مثل توپ فوتبال هستند و جلوی پای هر کسی می دست تمنو و ارتماس به دامن هر کس دراز میکنند، به جای رحم و شفقت به جای دستگیری و نوازش لگت تو سرشم من توی این فکرها بودم که عباس آقا با پشت دستش محکم توی سینه هم ده. اوهوی کجایی؟ مگه تری ید دیر شده که چخ میزنی سلام را بلند کردم و جواب دادم گوشم با توست بفرما آره جونم انسان باید سعی کنه زمین نخوره لگت نخوره اگر زمین خورده دیگه کارت تمامه مثل توپ فوتبال به همدیگه پاسیت میدد هر کسی برای خودنمایی هم شده برای اینکه تماشاچیان اطراف زمین کف بزنند و هورا بکشد لگد محکمتری به این توپ میزنی صحبتهای خیلی در روح قزم اثر گزاشت مثل اون توپ فوتبال شده بودم. منم یک انسانی بودم که پیش هر کس می میرفتم حرفم را بزنم لگر میخوردم. اولین لگر رو در دبیرستان نظام موقعی که لباس ژنرال رو پوشیده بودم خوردم. بعد از آن تلواتلوخورران توی میدان زندگی افتادم و بازی منو ها من رو به یکیگر پاس داده بودم. از هنوز حرف میزد. من از جا بلند شدم میدونی چرا تصمیم گرفتم که دیگه تو به فوتبال نباشم. یکی راست رفتم پیش دک تیمارستان. خیلی جدی گفتم، دکتر من خود شدم دکتر شروع به معاینه من کرد و چون از حرکاتش فهمیدم چیزی سرش نمیشه، حقیقت رو گفتم. راستش اینه که من از اول هم دیوانی نبودم و خودم به دیوانگی زده بودم. دکتر خندید. اینم خودش یک جور دیوانگیه. دکتر دوباره مرا در تیمارستان نگه داشت. این دفعه به رئیس تیمارستان شکایت کردم. یک نامه برای اون نوشتم که هیچ وکی دادگستری هم نمیتونسته بنویسه. اونم به جای کمک به من دستور و پرستارها بیشتر مواظبم باشم. این دفعه شکایت مفصلی برای رئیس دادگستری فرستادم و خلاصه اینقدر قضیه را دنبال کردم تا دستور آزادیم را دادم اما نه آزادی که بیام توی خیابان بلکه از همونجا یکی از مرا تحویل زندان دادم من که میخواستم دیگه تو فوتبال نباشم لگد اولی را از دکتر تیمارستان خوردم دکتر تیمارستان بدون هیچ دلیل فقط روی پدر سوختگی یک گزارش برای من نوشته بود که به قول معروف یک وجب روش آشی داغ داشت سراحفا نوشته بود که من دیوانه نیستم و خود او نیرنگ به کار بردم و چون این هم یک نو کلاهبرداری و فریب بوده مجددا پرونده برای این تشکیل دادن و دو سال دیگر به مدت زندانم اضافه شد هر دوی ما خیلی خسته شده بودیم فخمه به زحمت حرف میزد و من هم با همه اشتیاقی که به شنیدن پایان این ماجرا داشتم نمی توانستم هر را به بفهمم. قرار شد استراحت کنیم و بقیه را فردا صبح تعریف کند فردا صبح در اثر سر و صدای زیادی از خواب پریدن اده زیادی توی راهرو بلند بلند حرف میزدند و شیشکی میبستند و هورا میکشیدند پخمه که متوجه شده بود یک واقعه غیرعادی اتفاق افتاده ارجیش بلند شد و لای در را باز کرد توی راهرو هنگامه عجیبی بود مراد خیرس خفه کن از می دوید و قاضیاسکر هم در حالی که دامن عبایش را بالا گرفته بود به دنبالش میدوید و داد میزد بگیرید این پدر سخته را نگذارید فرار کنه پوشی سر آنها هم چند نفر از زندان زندان میدویدند و اده زیادی از قدیمی ها هم که شاهد این منظره بودند با سراسیدو می میخندیدند و مراد خیرسخفکون را تشویق کردند مراد خیرصخفکن داخل یکی از بندها شد چون ورود قاضیاسکر به بندها قدمم بود همانجا وسط راهرا ایستاد و شروع به فرش کرد احمق، بیدین، کشیف ماموری قاضی اسکر را به دفتر زندان بردند و دو سه نفر هم داخل بند رفتند و مراد خیرخسفه کن را آوردند زندانی ها از همی پرسیدن موضوع چیه چی شده اما هیچ کس علت این واقعه را درست نمیدانست این دین از ها برای فهمیدن جریان به طرف دفتر رفتند و موقتا سر و صداها خوابید من و پخمه هم به اتاق برگشتیم از علاقی که به داستان پایان ماجرای این زندانی داشتند. بی مقدمه گفتم خوب بقیه داستان چی شد پخمه خنده ای کرد لاقل میگذار سبحانه ای بخوریم سر روی صفا بدهیم نه خواهش میکنم برام تعریف کن وقتی تو حرف میزنی فراموش میکنم توی زندان هستم پخمه نگاه تر به سویم کرد و ادامه داد راست گفتند دوران زندان هم مثل عمر دشمن کوتاهه بالاخره بات هم یک روز رسید که دوران زندان من تمام شد و از در زندان بیرونم کردم لابو تعجب میکنه که میگویم بیرونم کردم واقعا هم بود آزادی از زندان برای من و امثال من اول بدبختی و بیچارگیست در خارج زندان نه کسی منتظر ماست و نه جایی داریم که بریم پرسیدم راستی پدر و مادرت چی شدن سوت بلندی کشید و گفت به گربون حواس جمع. هیچ می دانی از روزی که من از خانه پدرم در آمدم تا این تاریخ که قصه برات گفتم چند سال میشه اگه تو از آنها خبر داشتی منم داشتم آخه با چی روی میتونستم پیش اونها برم چطور میتونستم بگذارم اونها از سرگذشت من و از وضع پسرشون خبردار بشن خوب بری شکار کردی وقتی از این اینجا میدونم کردن نمیدانستم چیکار کنم و کجا برم فقط اینا میدانستم که نباید در شهرهای بزرگ و دم چک پلیس های سابقه دار مثل گاو پیشانی سفید میمانند این سابقه لعنتی چنان داغ ننگ توی پیشانی آنها می‌زنه که اگر صد فرسخ آن طرفتر یک قتل و جنایت اتفاق بیفته اول همه عقه این بابا را می گیرم تصمیم داشتم این دفعه از تمام شهرهای بزرگ و کوچک چشم بپوشم و به گوشه یک دهات دور افتاده برم از تمام آن افکار بلند و دور و دراز چشم پوشیده بودم فقط دنبال یک لقمه نانو یک جایی برای استراحت بودم تنها یک نظر ثابت داشتم و اونم این دیگه توپ فوتبال نشم و جلوی لگر بازیکنهای اجتماع نیفتم تا هر کس محزن لله یک لگر به هم بزنه دیوی سی پول داشتم و اون روزها با این پول خیلی کارها میشد کرد قبل از هر کاری به یک مغازه لباس فروشی رفتم و یک دست لباس نو خریدم پیراهن، کراوات، جوراب و کفشم رو هم لو کردم دو سهتا پیراهن و شلوارم خریدم و توی چمهدان کوچکی گذاشتم یک دفعه تغییر شکل دادم و یک آدم حسابی شدم بعد از آنجا به طرف یک بانگاه مسافر بری رفتم و بلیط اتوبوسی را که آدم حرکت بود خریدم و سوار شدم کجا میخواستم بروم خودمهم نمیدانستم پیش خودم گفتم هرچه باد آباد میرم تا ببینم به کجا میرسم وساط راه اتوبوس ما یک قهوهخانه توقف کرد مسافرها همه پیاده شدم تا چایی و شربتی بخورم. یک پسر کوچک جلو قهوهخانه داشت نان قندی می‌فروخت. منم حوست کردم یکی از آنها بخرم. وقتی دست توی جیبم کردم، چنان یکی خوردم که چیزی نمونده بود سکته کنم. از کیف پولم خبری نبود و درست یادم میآید که کیف پولم را توی جیب بغلم گذاشته بودم اما حالا نیست. به بی‌مانی که اشتباه کردم چند بار جیب‌های دیگرم را هم گشتم ولی خبری از پول نبود. معلومی شد برها دخلم را آورده. ترس عجیبی در دلم پیدا شد. تا کنون به اتکای این پول درگرم بودم. فکر میکردم دو هفته مداره بکنم تا کاری گیر بیاد. اما حالا چی؟ درمانده و حیران جلوی قهوه‌خانه خشکم زد. خدایا، خداوندگارا این چه سرنوشتی است؟ این چه بدبختی است؟ به کجا پناه ببرم؟ به کی دردم را بگم؟ همینطور توی توی ششوبش بودم که صدای شاگراننده بلند شد. مسافری سوار شد. من به به طرف اتوبوس رفتم سوار شدم. قبل از اینکه بفهمم پولم را بردم کمی گرسنه بودم اما از وقتی دادیستم پولی در بساط نیست به قدری احساس گرس نگه شدید کردم که انگار دو روز از چیزی نخوردم. به قدر گیج و منگ بودم که اصلا نمیفهمیدم چه وقت است و چه مدت است راه آمدیم و کجا هستیم؟ هرچی بود هوا کاملا تاریک شده بود و مقدار زیادی از شب میگذاشت که اتوبوس برای شامخوردن و نمازخوااندن جلو قهفه خانه ای من هم احساس ناراحتی شدیدی میکردم و احتیاج به رفتن مستراح داشتم. به معنی که ماشین نگه داشت، چمدانم را برداشتم و قبل از همه از ماشین پیاده شدم. جلوی خانه ده 15 نفر ایستاده بودند و توی دست یکشان هم یک چراغ زنبوری بود. تو مرا دیدن به طرفم آمدند و شروع به تعارف کردند. آقای معلم خوش اومدید. از این طرف تشریف بیارید. صفا ورودی معلم من به خدی در فشار بودم که با دست آنها را که اطرافم بودند کنار دادم و در حالی که از وسط چون رد شدم، آهسته از اینکه پرسیدم مصطره کجاست کسی که از همه مسن‌تر بود به پسر کوچکی اشاره کرد پسر آقا معلم و را راهنمایی کرد پسرش چراغ‌نبوری را به دست گرفت و جلو افتاد از این طرف تشخیص بیایید توی تاریکی اون از جلو و من از دنبالش را افتادی. راه به بی‌خطری طولانی به نظرم می که داد بکشم ما با این تشریفات را لازم ندارم. گورت را گم کن تا من راحت بشم اما یارو کنه معامله نبود. وسط مزرعه سوراخی را که اطرافش با چوب محصور کرده بودم به من نشان داد و خودش برگشت. من یک قدم دیگر پیش رفتم. ناگهان جسم بزرگی که توی تاریکی مثل یک کوه بود به رویم افتاد و صدای رعب‌آوری توی گوشم پیچید که تمام ناراحتی هم را فراموش کردم. و از ترس پشتم را به دیوار چوبی مستراح چسبانیدم و شروع به فریاد زدن کردم. یک سفاگی بزرگ گنده بود که مرا را قافل گیر کرده بود و اگر راهنما به کمکم نمی‌رسید الان سالها از مرگ من می‌گذشت. از تک خواهش کردم همانجا بماند تا مرا را به قهوخانه برگرداند. وقتی به قهوخانه برگشتیم اتوبوس حرکت کرده بود و رفته بود. ای داد و بیداد این چه بدبختی بود حالا چیکار کنم؟ جلو چورو در حالی که نیشش را تا بناگوش باز کرده بود گفت اورهان بی من خدای دی هستم و قرار بود جناب آقای بخشدار و آقای مدیر هم پیشواز بیاید اما دیر وقت بود البته خواهید بخشید فهمیده بودم که اینها مرا به جای معلم مدرسه اشتباهی گرفتند اما در آن نیمه شب با جیب خالی و شکم گرسنه وسط بیابان نمیدارم صف تکلیفم چیست و چی کار باید بکنم اگر پول داشتم رو کراس بهشان میگفتم بابا اشتباه کردی من اون بی معلمی که شما منتظرش هستید نیستم بعد هم رو هم رو میگرفتم و میرفتم اما حالا چی شما فکر این موضوع چاره ای داشتم تصمیم گرفتم امشب رول معلم را بازی کنم و شامی بخورم و جایی بخوابم و فردا صبح غذل خداحافظی را بخوانم خدا جلو افتاد و به پشت دیوار خانه اشاره کرد از این طرف بفرمایید دروشک حاضره راهی این دهاط ما نزدیکه اما جاده خوب نبود و شما پیاده خسته می شدید. به اتفاق خدا سوار درشکی شده و حرکت کرده بقیه که پیشواز معلم آمده بودند دنبال درشكه شروع به دویدن کردند در خیلی به حالشان میسوخت ببین با چه اشتیاقی برای پیشواز من آمدند. و تا نیمه منتظر ماندن فردا صبح وقتی بفهمن من آقا معلم نیستن تکریف من چیه؟ خدایا خداوند خودت از این بند من رو نجات بده کاش توی همان زندان مانده بودم و پیش این مردم ساده دل و پاکنیت خیجلت زده نمی خدایا به حق مقربان درگاه خود هیچ جوانی را خیجلت زده نکن داشتم با خدای خودم راز و نیاز می کردم و که خدا پشت سر هم حرف میزد. او هابی نمیدانید از وقتی که تلگراف شما رسیده و قبول کردهید که به این دهکده کوچک بیایید و به بچه های ما درس بدهید چقدر دههاات ها خوشحالم. همهشان بیان پیان پیشوا من نذاشتم گفتم ماشین دیر وقت میرسه آقا معلم راضی نیست. با سر حرفهای او را کردم و که خدا که در زنش و کلام یک دنیا صداقت و راستی مجبیزد ادامه داد حالا می بینید براتون چیکار میکن. هر قدر او از علاقه دادی‌ها حرف زد من بیشتر نراحت می‌شدم. دو سه بار تصمیم گرفتم تا گند کار بیشتر در نیومده پیاده بشم و برم پی کارم. اما کدام کار و کجا می‌تونستم برم؟ با وجود این کاشکی رفته بودم. به قد طرف خودم غرق بودم که نفهمیدم چه وقت دروشکه به دهکده رسید. اده زیادی زن و مرد و حتی بچه‌های کوچاک که فردا می‌بایست بهشون درس بدهن پشت دیوار دهکده با چراغ‌های بادی و منتظر بودند. عاقلی نزدیک شد شروع به کف زدنم و رو کش نکرد. تا همدمم خودم رو جمع جور کنم درشکی ایستاد و سه چهار نفر آقای خوشلباس که معلوم بود شهری هستند جلو اومدند. خیر مقدم عرض می‌کنم آقای معلم. من بخشدار اینجا هستم. خوش اومدین بی من مدیر مدرسه هستم. صاف آوردید آقا من رئیس پاسگاه جانداری هستم. قیمتی اینکه لبخند بزنم و تشکر کنم چاره‌ای نداشتم. آقای شهردار بازویم رو گرفت و گفت معلوم میشه خیلی خسته هستید بفرمایید فعلا منزل ما استراحت کنید تا فردا ترتیب جای شما را بدهید آقای نجدت مدیر مدرسه جواب داد اختیار دارید آقای بخشدار منزل ما هم جا هست اجازه بدید بنده مهماندارشان باشم کت خدا و دوسه نفر دیگر از هم اصرار کردند به منزل آنها بروم من هیچ حرفی نمیزدم و تسلیم محض بودم و بالاخره قرار شد شب را مهمان آقای بخشدار باشم شب بسیار خوبی تهیه کرده بودند همه چیز بود موقع موقلمون کباب بره اما چه فایده که من با همه گروسنگی به قدری خیالم ناراحت بود که انگار زهر میخوردم. فرد و صبح هم مجالی برای فرار از این دام پیدا نکردند اهالی دهکده به قدری اشتیاق به ابتدای مدرسه داشتند داشتن که قبل از طلوع آفتاب جلوی منظر شهر جمع شده بودند ما مجبور شدیم با عجله صبحانه ای بخوریم و به طرف مدرسه دهکده برویم موقع صرف صبحانه آقای نجدت شروع به تعریف کرد این مدرسه را اهالی ده با پول خودشان ساختند دو ماه پیش من از استانبول به اینجا آمدم بیشتر کارها را انجام دادم اما میدانید اداره یک مدرسه به تنهایی ممکن نیست به همین جهت تقاضای اعزام یک معلم کردیم و دو سه روز پیش که تلگراف شما رسید به قدر خوشحال شدیم که حد نداره من همچنان توی فکر بودم اگر اونها اصلی برسد چی خاطر کسام بریزم پرسیدم اتوبوس روز چندم میرسد بخشدار جواب داد فقط شب ها آید. چطور منتظر کسی هستید من با اون که از جواب اولش کمی دلم آرام بود، از سوال دومش چنان یکی خوردم که گوی حاضری متوجه شدند. آقای نجدت پرسید: راستی قرار بود شما با به و بچهها بیایید، پس. بخشدار خندید: لا بهتر دیدن که اول خودشان بیان و اگر خوب بود بعد بچه ها رو بیارن. زورکی خنده ای کردم. نه دیگه. نجدت رنجید خاطر توی حرفم دوید دیگه قرار نبود در بکنید. البته اینجا برای شما خیلی محیط کوچک است اما در عوض مردمش خیلی با صفا و باحقیقت بود و شما به نام انسانیت نباید فکر رفتن را بکنید. باز هم سرم را تکان دادم و خندیدم. خدایا من در چه حالم و اینا چه فکر میکنم آقای بخشدار خواهش کرد بفرمایید بریم مدرسه. از کوچه های تنگ و پر از گرد و خاک و و در میان شور و ابراز احساسات دهاتی ها به مدرسه رسیدیم. از اینکه اتوبوس نصف شب می‌رسید و تا آن وقت پرته ای من روی آب نمی‌افتاد خیالم کمی آسوده شده بود. اما آخرش چی؟ ساختمان مدرسه که این همهدههاتی ها برای شاده میکرد و جشن گرفته بودند دو تا اتاق کاهگلی کوچک بود و در و پنجره حسابی هم نداشت. چندتا الوار در کنار دیوارها روی تنهای درخت گذاشته بودند و نیمکت ساخته بودند و برای آقا معلم هم یک کرسی گذاشته بودند. خله با هزار شاهد هم نمی ثابت کرد که اینجا مدرسه است. بخشدار با غرور زیادی نطق افتطهیاش را شروع کرد. خیلی خوشب که با زحمات زیاد و کمک مردم توانستیم این مدرسه را بسازیم و از طرف خودم و تمام اهالی این دهکده از آقای نجدت و اورهان که حاضر شدند برای تدریس به این دهکده دور افتاده بیاید، صمیمانه سپاسگزاری میکنم. همه کف زدن و هورا کشیدن و مدرسه رسما افتتاح شد. سه چهار تا از بچه های تمیز و توپ ظرف‌های نقل شیرینی آوردند و هوزار دهانشان را شیرین کردند. آقای بخشدار رویش را رو به من کرد. اونهان بی، مردم این دهکده مقدم شما را گرامی می‌دارند. به زودی ما مدرسه را غصعت خواهیم داد شما باید از هر هرجت خیالتان راحت باشد. تا وقتی هم خانواده و اسی شما نرسیده مهمان من هستید. وقتی هم اساسیه شما رسید منزل خوبی برایتان تهیه میکنه. آن روزهای ناهار میمانکت خدا بودیم چه تشکیلات مفصلی را انداخته بودند. اولین دفعه بود که سر کسی کلاه میگذاشتم اما هرچی میخواستم اصل قضیه را بگویم زبانم یارای حرف زدن نداشت. و نمیدانستم بعد از گفتن حقیقت چی کار کنم به کجا برم؟ بعد از نهار تصمیم گرفتم از بخشدار یک کمی پول قرض بگیرم و قبل از نیمهشب و رسیدن اتوبوس و آمدن اورهان اصلی فننگ را ببندم بگذار اینقدر دنبالم بگردم تا خسته بشند اما هر قلب خودم فشار آوردم نتوانستم به بخشدار چیزی بگم اصر با مدیر مدرسه تنها ماندم گفتم آقای مدیر میخواستم یک چیزی خدمتتون عرض کنم آقای مدیر نگذاشت حرفم را تمام کنم میدانم چی میخواهی بگی خیلی جا خوردم از کجا فهمیده نکنه شناخته باشه آقای مدیر دستش رو ی هم گذاشت. فکرشو نکن. اینجا آنقدر هم که میبینی بد نیست. کم کم به همه چیز عادت میکنی نمی‌دونی مردم اینجا چقدر ساده و پاکتی نفس و نجدت پشت سر هم حرف میزد خیال کرده بود من از اومدن به این دهکده ناراضی هستم. حرفش رو بریدم و گفتم خیر، منظورم این نیست. چیز دیگه میخوام بگم. اما نجدت که خیال میکرد همه چیز رو میداند باز مهلتم نداد حرفم رو تمام کنم و گفت: میدانم آقا جان داد چ چیزی چی را میدونی؟ نجدت کمی مکس کرد و به صورت من دقیق شد از داد کشیدن من خیلی تعجب کرده بود بفرمایید گوشم با شماست این بار نگاه او طوری بود که من تردید کردم حرفم را بزنم مجدت پرسید چی میخواستی بگی؟ کی به شما گفت من معلم هستم نگاهی تعجر به رویم کرد خود شما من؟ چه وقت؟ کجا؟ منم چه حرفی زدم؟ آهسته پرسید مگه شما تلگراف نکرده بودید نه من تلگراف نزدم نمیدونم شما چرا تکسیب میکنید تلگرام شما هنوز توی جیب منه ایناها بعد شب تلگرام را از جیبش در آورد و جلوی چشم من گرفت بدون اینکه کاغذ رو نگاه کنم گفتم این تلگرام درست ولی به من چه ربطی داره مگه شما اوها نیستید سرم را پایین انداختم و آهستی جواب دادم نه مجدت سرش جلو آورد و با لحن مشکوک پرسید. نکنه شما پلیس مخفی هستی و برای تحقیقات به اینجا آمدی من ساکت ماندم و نجدت که گمان میکرد درست حت زده ادامه داد بله من هم شنیدم که این دهکده اده قاچاقچی هستن تریاد درست میکنن حالا فهمیدم شما برای چی خاطر اینجا آمدی این آقای نجدت از آن آدم ساده و بیشیل پله بود که خیال میکنند همه چیز را میدانند اینجور آدم ها را از یک بچه هم زودتر میشه خواستم او طورو تصدیق کنم و از دستش خلاص بشم ولی دیدم کار خرابتر میشه. نجدت که منتظر جواب من بود گفت جون من درست حد زدم. اینو نمیتونم به شما بگم. همینقدر میگم اسم من حقی است و ارخان نیست. دروغ هم نگفته بودم. اسم اصلی من فرید حقی بود و توی مدرسه فقط به من میگفتند فرید. ترسیدم اگر اسم فرید رو بگم روزنامه ها را خانده باشد و اسم من یادش مانده باشد. به همین جهت خودم رو حقی معرفی کردم. نجدت گفت آقای حقی چرا این موضوع را قبلا نگفتید شما محلط ندارید من خودم را معرفی کنم من از اتوبوس پیاده شدم میخواستم دست به آب برسانم که همه ریختند دور من و گفتند آقا معلم خوشامدی من اون موقع خیلی ناراحت بودم بعدش هم اتوبوس رفته بود فرداشم که همه چیز را فهمیدم نتونستم چیزی دیگم چون پولها ما از جیران زده بودن نجدت با تعجب و حیرت حرفها گوش میداد عجب عجب چطوری جیب پلیسی مثل تو را زدن من پلیس مولیس نیستم نجدت باز هم خنده مخصوصی کرد میدانم میدانم البته شما نمیتونید بگید پلیس هستید اما به من اطمینان داشته باشید دهان من نق نیست من اصلا چیزی از شما نشنیدم و از چیزی خبر ندارم نژدت خواهش میکنم تمنا میکنم من پلیس نیستم البته البته نیستید این خیلی بهتره و نباید کسی شما رو بشناسه از دست این مرد داشتم دیوانه میشدم هنوز از یک چاله در نیامده داشت دستیدستی دستی رو توی یک چاه میانداخت می ترسیدم مرا دچار تا یک بدبختی بزرگتری بکنه و این دفعه به نام پلیس تغالبه گرفتار بشن. آقای نجدت، نیستم به خدا نیستم. نیستید بسیار خوب. این جمره رو طوری می گفت که هزار تا و من هر هرچی اصرار کردم ثابت کنم پلیس نیستم، به خرجش نرفت. نجدت سوال کرد: "در اینجا چه مدت می مانید؟" معلوم نیست، ولی در اولین فرصت خواهم رفت. البته وقتی کارتان تمام شد. چه کاری آقای نجدت؟ بابا جان چه اصراری داری ما را پولیس معرفی کنی؟ بازم خندید ببخشید فقط یک خواهش از شما دارم که برای شما هم خوبه چه خواهشی؟ تو وقتی اینجا هستید با من همکاری کنید و نگذارید من فنا بشم منظور اینه که معلمه کنم؟ بله، بگذارید همه خیال کنم معلم هستید این وز خیلی براتون بهتره آقا جان، اصلی میاد و گند کار در میاد مگه تو این مملکت فقط یک هست؟ او یک هم و شما هم یک اورهان آقای نژدت طوری حرف میزد مثل اینکه اگر من میرفتم مدرسهاش تعطیل میشد و یا از نون خوردم میافتاد راست هم میگفت حالا که من جایی ندارم برم و پولی در بسات ندارم چه ابدار پیشنهادش رو قبول کنم بسیار خوب اما به شرط که هیچکس از حرفای ما متلی نشه خیالت جمع باشه من آدم دهلقی نیستم دستها را بالا زده و شروع به کار کرد. آدمها به مرور زمان دروغهای خویش را باور میکنند سابقی دارهایی که مدت زیادی در زندان بودند این موضوع را خوب میدانند زیرا به علت فشار روحی و از این نظر که تمام درها باز هم که باشه به روی خود بسته میبینند یک نوع حالت زودباوری در قلب آنها پیدا میشود من هم از اینو انسانها بودم. با اینکه روز اول حتی از تصور اینکه به جای اوهانبی باشم، ترم از ترس میلردید اما پس از چند روز باورم شده بود که اوهانبی هستم. خیلی طبیعی و بدون تشویش سر کلاس می‌رفتم و شاگردها را درس می‌دادم. فقط یک ناراحتی داشتم اورهانبی اصلی چرا نمیاد آقای نجدت وسایل زندگی مرا از هر حیس فراهم کرده بود یک اتاق کوچک با اساسیه تمیز برایم خریده بود و مردم دهکده هم به من خیلی احترام میگذاشتند خلاصه وضع بسیار خوبی داشتم خیالم راحت بود زندگی آرام و بیسر و صدایی را میگذراندم وقتی هم پیش نجدت از دیر کردن اورهانبی اظهار ناراحتی میکردم او میخندید تو از کارهای فرهنگ سردر نمیاری فرهنگ ما مثل موهای فرفری سر سیاه هاست و به این زودیها باز نمیشه نابود همان روز که میخواسته به اینجا حرکت کنه او را به جای دیگه منتقل کردن هم. یا همان روز ترفیه گرفته و به مقام بالاتر رفته شایدم اخراجش کردن اتفاقی که به سر خودش آمده بود تعریف میکرد در عرض یک سال به سه شهر منتقلش کرده بودند با اینکه یک کلمه زبان انگلیسی نمیدانست یکدفرهم او را به سمت معلم انگلیسی تنگ کرده بودند از بدبختی و بدشانسی من دو سه هفته بعد نجدت هم از آنجا منتقل شد و یک حکم بلند بالای از فرهنگ رسید و مرا یعنی اورهان را به مدیریت مدرسه تعیین کرده بودم این بدبختی دیگر قابل تحمل نبود نمیدانستم تکلیف چیست از نجدت پرسیدم چکار کنی؟ هیچ جانم ناراحت نشد تو در اینجا یک وظیفه دیگر داری سرپرستی مدرسه را هم به عهده میگیری تا مدیر اصلی بیاد نجدت از اینکه منتقل شدی و به جای بهتری می رفت خیلی خوشحال بود. اما منی بیچاره چی؟ موقعی رفتن نجدت نتوانستم خودم را کنترل کنم و شروع به گریه کردم. بعد از شما من نمیتونم اینجا بمانم. خیلی اصرار کرد. بی خودی کارها رو خراب نکن. هرچی کردم به نجدت بفهمانم که من پلیس نیستم نشد که نشد بعد از رفتن او وظیفه من خیلی مشکل تر شد. زیرا هم میبایست مدرسه را اداره کنم و هم شاگردها را درس بدم. اما من از کار کردن خسته نیمی شدم. آرزو داشتم ای کاش معلم واقعی بودم و تا آخر عمر به این مردم حقشناس و سادل و هدهات خدمت می کردم. سر ما حقوق من وسیله بخشداری حواله شد باز هم تردید داشتم که پول را بگیرم یا نه چارهی نداشتم مقدار زیادی بابت خرید اساسی و بود. بودم لیست را که دیدم دود از کلم خارج شد فهمیدم ارهانبی از معلم قدیمی است چون حقوقش ماهی لیره بود. وقتی پول را گرفتم مثل این بود که جرم مرتکب شدم به بهقدی منقلب شده بودم که آن روز نتوانستم در مدرسه حاضر بشم. به بهانه مریزی توی خانه ماندم تا فکر به این بدبختی خودم بکنم فکر کردم بهتر است تا پول دارم از آنجا فرار کنم اما مدرسه را چی می کردم؟ تکلیف بچه ها چی می شد؟ تازه رفتن من از آنجا کار ساده ای نبود همه می و نمیگذاشتم برم حس میکردم که دوباره توی یک به اما چارره نمی ای کاش که فرار کرده بودم و منتظر های بعدی نیمی سر و سارسیدوی که توی راهروی زندان بلند شد دنبال داستان را قاپ کرد. پخنه از جا بلند شد و به راهرو رفت و من هم دنبال او بیرون آمدم. مراد خرسخفکن وسط یک اده از ها داشت داستان قاضی اسکر را تعریف می‌کرد و بچه ها با صدای بلند میخندیدند. موضوع چی بود؟ معلوم شد هر روز صبح که قاضی عسكر به زندان می آمده رفقای مراد خرسخفکن جلوی در خروجی زندان می و بعد به بهانه مصافحه با آنها مقداری تریاک به آستر عبای او سنجاق می کردند آقا هم بدون اطلاع این تریاک ها را به داخل زندان می آورده و مراد خرسخفکن هم که از مریدان پرواغور ایشان بوده به محض ورود ایشان به دنبالش می افتده و تریاک را برمی داشته امروز هم هرچی ابای آقا را دستمالی میکند اثری از تریاک نمی بیند. به گمان اینکه تریاک داخل آستر عبا افتاده دستش را جلوتر میبرد و حتی لای پای آقا را دستمالی میکند آقا از این حرکت او خیال بدی میکند و به گمان این که مراد قصد توهین داره سر به دنبالش میگذارد و آن قشقرق راه میافتد قافل از اینکه امروز رفقا دیر آمدهند و اصلا بسته امانتی ارسال نشده بازوی فخمه را گرفتند و خواهش کردند به اتاق برگرده. پخمه نگاهی به رویان کرد و خندهٔ مخصوصی نمود مثل اینکه خیلی از این قصه خوشت آمده من عاشق اینجور سرگذشت ها هستم به اتاق برگشتیم و دنبال داستانش را تاریب کرد تمام راهها رویم بسته شده بود فقط راه بدبختی باز بود. نمیمیدانستم برای فرار از این بدبختی چیکار کنم بالاخره تصمیم گرفتم تسلیم سرنوش بشم تا ببینم چی پیش میاد در مانیت های کوچک اشخاص خیلی زود به هم انس می گیرن. به خصوص که اینها مجبور هستند شب و روز با هم زندگی کنند. ما هم شبها با بخشدار و رئیس جانداری و نماینده کشاورزی و کدخدا و چند نفر دیگر جمع می شدیم. و قهرن سات مشروب و قمار هم پیش می‌آمد. من مشروب نمیخوردم میدانستم که اگر مست بشم، حقایق را خواهم گفت و گند کار میاد. یک شب که مناسبت مدیر شدن من رفقا جشن گرفته بودند، این وقتی به سراغم آمد. اولش خیلی سعی کردم مشروب نخورم، اما وقتی بخشدار استکانش را به سلامتی من بلند کرد، بیادبی بود. من به سلامتی اون نخورم بخشدار که بود از جایش بلند شد و شروع به ندقی کرد ارهانبی یکی از فدایان اردوی فرهنگ ماست که زحمات زیادی متحمل شده و شایسته مقامات بالاتر است توی دلم گفتم خداوند مرا را از این انحراف نجات بده بخشدار سرش را به طرف من برگرداند و خندهی کرد رفقا بخوریم به سلامتی دوست عزیز و محترممون من آقای ارهانبی همه را بلند کردند و من بهقدری از تعریف بخشدار خوشم آمده بود که بی اختیار استکان پر از عرقم را بیخی گلویم خالی کردم به سلامتی که ات خدا هم داد کشید و ما هیچ وقت اورحانبی را فراموش نخواهد کرد به سلامتی من یک استکان دیگه خوردم نماینده کشاورزی هم بلند شد. من این آب طرخ را بیاد بود خاطرات شیرین دوست عزیزم اورهانبی می نوشم من یک استکان پر دیگه هم بالا انداختم از شوق یعری گرفته بود به زحمت خودداری میکردم تا کسی متوجه انقلاب روحیم نشود به خری در زندگیم سختی کشیده بودم که هرگز فکر نمیکردم کسی از روی عقیده و ایمان مرا دوست داشته باشد و به من محبت کند پنجمین استکان را که خوردم جلوی چشمام تیره شد یک نوع حس حقارت و شرم بر وجودم چنگ مقصری بودم که کلاه سر همه گذاشته بودم از اینکه این, این انسانهای خوشغلب و خوشنیت را گول زدم خجالت میکشیدم اگر اینها به من یک سابقه دار معروف هستم با من چی معامله خواهند کرد نوبت حرف زدن به من رسید باد آباد. هنگامی که استکان خودم را برداشتم گوشهایم کر شده بود بی اختیار زبانم را افتاد دوستان محترم از اینکه شماها را گول زده هم عفت ممکن است شما حرفهای مرا باور نکنید ولی عین حقیقت است نیهمان ها شروع به پچ و پچ و من نگاه عمیقی توی صورت آنها گرداندم. میدانستم این حرف ها معنی نداره. ولی دست خودم نبود. مفسی و راستی. خیلی وقت بود دلم میخواست این حرفها را بزنم. می دانستم که بالاخره یک روز گیر می و همه این جریان زندگی را می فهمن. پس چه بهتر خودم قضیه را افتادی کنم. رفقا من اعتراف می کنم که لایق محبت شما نیستم. من یک آموزگار تقلبی هستم. شعل مقدس آموزگاری کجا و من کجا من سر همه کلاه گذاشتم گریه هم گرفت و نتوانستم حرفم را ادامه بدن بخشدور به صدای بلند گفت اختیار دارید شما نمونه یک فرد فراکار و وظیفه شناس هستید بغزم را فرو بردم و فریاد کشیدم به خدا راست میگم من حق دیگری را قصد کردم نماینده کشاورزی و کت خدا که پهلوی هم نشسته بودند آهسته به هم گفتند فلانی مست کرده نمایندهٔ بهداری گفت بله ما هیچکدام به اندازه پولی که میگیریم کار نمی هر کدوم یک چیزی میگفتند و چیزی نمانده بود که از عصبانیت بترکند نمیگذاشتند حرفم رو تمام کنم آقایان اجازه بفرمایید رئیس ژاندارمری که پردای من نشسته بود یک استکان دیگر عرق به دستم داد و دامنم را گرفت و کشید و من رو, رو روی سندلی نشاند من استکان عرق رو خوردم و دوباره از جا بلند شدم رفقا اجازه بدهید من گناهم را اعتراف کنم. بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم من دوچار عذاب وژدان هستم بیاید منو توقیف کنید ریس ژاندارمیری دوباره مرا رو روی صندلی نشان و دیگه چیزی نفهمیدم فردا صبح فهمیدم دو سه نفر از رفقا مرا من به منزل پرده و خوابانیده بودند در اثر این بعد یک روز تمام توی خانه افتادم و نتوانستم در مدرسه حاضر بشم شب بعد هم از خجالتم در جلسه رفقا نرفتم و توی خانه ماندم تا نیمه شب بیدار بودم و به بدبختی خودم فکر می کردم که ناگهان چند ضربه به در اتاق خورد. تا حالا سابقه نداشت کسی بعد از غروب آفتاب سراغ من بیاید. توی دهات شبها خاموشی و سکوت عجیب حکمفرماست و, و دهاتی‌ها خیلی زود بر سخت خواب می در درم یک بار فرورفت. حس کردم موضوع مهم است و حتما رئیسمون دلمیری برای توقیف من آمده. بیچاره ترسیدم که برای چند لحظه قادر به حرکت و جواب نشدم. کسی که پشت در بود دوباره چند ذره محکم به زد و با خیجان از پشت در گفت: "ماجده بدید زن هاتون آمدن اگر زلزله میآمد اگر بمب اتم منفجر میشد، اگر دنیا به سرم خراب می گردید اینقدر نمی‌ترسید. می کسی شنیدن این خبر جا خوردم ای داد بیداد، اینو چیکارش کنم؟ فکرم از کار افتاده بود. چنان ناگهانی نازل شده بود که راه و چاره‌ای وجود نداشت. و تا آمدم به خودم به جنبنگ صدای پای شش هفت نفر و سر و صدای خنده و صحبتهای آنها از پشت در به گوشم رسید بابا خوابه هلش نکن. در را باز کن مگه کپهی مرگه چاره‌ای نبود جز اینکه فرار کنم و جانم رو نجات بدم لباسهایم را توی بغلم گرفتم و از پنجره کوچکی که پشت اتاق بود وارد کوچه شدم و به طرف خارج دهکده دویدم تا مسافت زیادی سر و صدای زن اورهان و بچههایش رو میشنیدم اما چارهای جزاین کار نداشتم سگهای به صدا درآمده بودند و فرار من در آن شب سر و صدای راه انداخته بود که تمام مردم ده از خواب بیدار شدند میدانستم فرار من بیهوده است با این هال سعی داشتم با هر زحمتی هست خودم را به کنار جاده برسانم شاید از دست آنها نجات پیدا کنم هنوز به جلو قهوهخانه نرسیده بودم که كه ها از عقب رسیدند و صدای ایست و بعد گلنگدن توفنگ هاشون به گوشم رسید مثل چوب خشک سر جایم ایستادم و با ژاندارمها به ده برگشتم زن و بچه اورهان با دیدن من چنان سر اصدایی را انداختند که پنج تا ده آن هم خبردار شدند زن اورهان شوهرش را از من میخواست و بچه ها هم پدرشان را میخواستند کار ما به دادگستری کشید و معلوم شد اورهان اصلی هنگامی که به محل مأموریت میآمده از ماشین توی دره پرت شده و مرده و جسدش را به نام مجهول مجهولالهویه خاک کردند باز هم من در مزان اتهام قرار گرفتم و بازپرس نظر داد که من برای تصاهب مقام او این نقشه را ریختم سبب قتل اورهان هستم بیاو اینو درستش کن. سابق اگر به جرم کلاهبرداری زندانی می شدم باز امیدی به نجات خودم داشتم. اما این دفعه چی؟ موضوع قتل عام مسئله کوچکی نبود. هرچی قسم خوردم و هرچی دلیل و برهان آوردم به گوشی هیچ کس ظاهر قضیه هم طوری بود که شک آنها را موعد به یقین می‌ساخت. با یک پرونده کلفت از پله ها پایین رفتم تا خدا چه بخواهد. فردای آن روز بازم روزنامه‌ها قوقای راه رو انداختن. دبیر قلابی. دکتر قلاوی تاجر قلاوی توی زندان وزن خیلی تغییر کرده بود. سلیمان نانی فروشا مراد خیرصفه کن که سالها دشمن خونی هم بودند با هم گاو بنده کرده دو رو از دست همه گرفته بودند. بعلاوه از همه اینکه اون سال هوا خیلی سرد بود. هیچ کس زمستونی مستونی بیاد نداشت. زندانی ها توی اتاق‌ها مثل بید می می‌لرزیدند. جیب من هم خالی بود. به همین جهت برخلاف همیشه که ها از ازم پذیرایی می‌کردند هیچ کس محل سگ هم بهم به نداشت. همیشه زمستانها مشتری زندان بیشتر است ولی اون سال جمعیت زندان اثر گذشته بود من یک راست به طرف تختخوابی که سابق روش میخوابیدم رفتم اما دیدم مسافر داره پرسیدم کی تختخواب منو گرفته هیچ کس جواب نداد و پتوی را که روی تخت بود روی زمین انداختم و پتوی خودم را پهن کردم بعد از چند دقیقه سلیمان نانفروش آمد بدون اینکه به من نگاه کند گفت کدام پدر مادر فلانی این پتو رو برداشت همونجا که نشسته بودم داد کشیدم حرف دهن تو بفهم بچه دیروزی تو هنوز پنج سال می زندان آمدی چی خبرته های خون گرفته اش رو به صورت اندا بیا پایین اونجا صاحب داره صاحبش بری سنگ بندازه دستش خواست چی تو زندان رسمی که ها و گرنکروفس‌ها تختی خوابشان رو روبروی در میگذارد خاصیت این کار اینه که دشمن نمیتونه غافلگیرشان کنه و اونها هر وقت میتونن خطر رو از دور ببینن من می که مخالفت با اینها عاقبت خوشی نداره ولی دیگه از چی میترسیدم بالاتر از سیاهی که رنگ دیگری نیست وقتی قرار من برای قتلی که روحم از آن خبر نداره گوشه زندان بیفتم پس بگذار دق و دلم را از اینها بگیرم رفتار من سر و توی من رو انداخت سایر زندانی که خیال نمی کسی بتونه شاخ سلیمان ننی فروش را بشکنه از من های درآورده بودند اونها نمی‌دونستن من به چی می‌نازم و پشتم از کجا ورسه که چنین درآمدهایی کنم عجیبی اینه که سلیم ما خودش هم جا خورد. البته او مثل گاو می‌ماند و شکستن رستخون‌های من براش کاری نداشت اما از اینکه دیدید من جلوش در اومدم ماتش برده بود. من بدون توجه به طوفانی که به کرده بودم خیلی بی اهمیت رو تخت دراز گشتم و سرم رو زیر پتو کردم. از سرما زیر پتو قوز کردم و داشتم حساب و که داستان قدی آمد روی دستش یک چای بود. اینا سلیمان فرستاده نمیخوام و با دست دادم استکان چایی افتاد روی زمین وقتی شام شد باز قدری یک سینی غذا آورد و گفت اینو آقا سلیمان فرستاده سینی رو هل دادم ببر بده پدر و مادرش بخوره. خوب نیست پسر اسخر شیطون بیا پایین یک کاری دستت میده هر غلطی میخواد بکنه من از چاقوی او نمیترسم خودمهم نمیدانستم چرا این قلج بازی میکنم خوب یا بعد یک روح عصبانی پیدا کرده بودم و آماده بودم که به قیمت جانم با مردان بجنگم وقت خواب قدری بازم آمد روی دستش چند تا پیراهن پشمی و یک دانه پوستین بود پوستین را به من نشان داد گفتم پول ندارم کدوم پدر در سوختهای از تو پول خواسته تو خیال میکنی توی دنیای انسانیت نمانده اینا سلیمان برک واست فرستاده من در حالی که از سرما لرزیدم پوستین را زدم توی صورت قدری بهبر بده مادرش تنش کنه تو هم راه تو بگیر برو اگه این دفعه بیای اینجا غلم پاتو میشکنم قادرن یک روی زمین کرد و راه افتاد. سلیمان نمیگذاره تو از این غلط ها بکنی. او تا حالا 5 نفر رو کشته. در حقیقت هم همین طور بود. سلیمان نانفروش اجازه نمیداد کسی فاتو کفشش بکنه. ولی دربارای من چه سیاستی داشت نمیدونستم حتما منتظر فرصت بود. خطر دور سرام میچرخید. من با بزرگی از خودم طرف شده بودم و همه اطرافیان حس میکردند به زودی طوفان سحکینی در زندان به خواهد شد. سلیمان عباشو انداخته بود دوشش و مثل گاوهای جنگی اسپانیولی که منتظر حمله به حریف هستند تونتون راه میرفت خطر هر نهده نزدیکتر میشد ولی من بیاعتناب سرنوشتم به خواب عمیقی فرو رفتم فردو صبح هنوز زیر شواکش کشهواکش میکردم که صدای مأمور بند بلند شد فرید بیا دفتر با دلخوری پا شدم لباسهامو پوشیدم میدونستم که برای بازجوی خواستنم رفتم جلوی دفتر معمور كشیک گفت بانا خواستان از سر كنت و مأمور بیاد بفرستمد شد. پچرس سر پیله‌ها ایستاده بودم. داشتم با آخر و عاقبت خودم فکر می کردم آدم بابا از تی کوریدور داشت میآمد اینم یکی از زندانی های قدیمی بود. ولی از بس سر و وضعش کثیف بود هیچ کس رقبت با باهاش حرف بزند لباسش به قدری پاره بود که از لای پارگی ها پوست تنش بیرون می‌ریخت. توی دستش یک بطری خاله بود. به نظرم اینکه به دو قدمی من رسید بطری را بالا برد. و تا من آمدم به جنبهم جلو چشمم برقی زد و صدای خورده های بطری شکسته رو شنیدم و دیگه چیزی نفهمیدم همه خیال میکردم که کار من تمام شده ولی همان روز از توی بیمارستان بههوش اومدم چون هم ثابت شده و حکم آزادیم را نوشته بودند همون شبانه از بیمارستان زندان مرخصم کردند سرم را بانپیچی کرده بودم و هم خونی بود با این وضع و هر جا میرفتم فوری پلیس دستگیرم میکرد به همین جهت تصمیم گرفتم به یکی از دهات دورافتاده برم سوار اتوبوسی که به طرف می میرفت شدم و حرکت کردم شاید با پولی که از دوران معلمی برایم باقی مانده در یک کشور مملکت لقمنانی به دست بیارم در این موقع صدایی از توی کوییزور بلند شد که سر تا پایم را به لرزه انداخت یک نفر داشت مرا با نام و نشانی صدا می‌کرد خنده سردی روی صورت پخمه پیدا شد و آهی کشید و گفت انشاءالله ورقه آزادیت رسید من از شدت هیجان نتونستم اجواب بلند کنم پخمین را باز کرد و پرسید چه خبره؟ رفیقت آزاد شد؟ انگار باری گیرانی رو از دوشم برداشتم. سبک شدم مثل پرنده سبوک بال از جا بلند شدم و با دستپاچگی با پخم خداحافظی کردم. به خودم خودممو گم کرده بودم که یادم رفت بپرسم آخر داستان چی شد؟ پخمه خودش یادم آورد رفیق لقل آدرس تو بده بیام پیشت بقیه قسم را برای تعریف کنم. ازش معذرت خواستم در حال که از در خارج می شدم آدرسم را دادم، و قرار شد اگر زندانیش طولانی شد بقیه مطالب را بنویسه و برام بفرسته مدتها طول کشید و خاطرات دوران زندانم را داشتم فراموش میکردم که نامهای از پخمه به دستم رسید این نامه محتوی حال عجیب و باور نکردنی اوست که سرتاپا هیجان است و شما که مسلما نمیتوانید صبر کنید تا بقیه داستان را در کتاب جداگانهای برایتون منتشر كنید نامهای که پخمه برایم فرستاده بود بدون عنوان و, نام و نشان بود و اینطور شروع می شد تصمیم نداشتم سرگذشتم را بنویسم. می ترسم انتشار این ماجراها سر و صدای زیادی بلند کند و نام من که مدتهاست از یادها رفته و فراموش شده دوباره سر زبان ها بیفتد. از طرفی خوب نیست این سرگزشتها منتشر شود و به دست کلاهبردارها بیفتد. آنها با خواندن داستان من از خجالت آب می شود و از اینکه کارهایشان در مقابل شیرین من بیا و ناچیز است احساس حقارت می کنند. آخر من هیچ خیال نداشتم به خدا، به امام، اگر یک ذره هم راضی بودم به کسی ضرر بزنم یا کلاه سر کسی بذارم، ولی چه کنم؟ حوادث جلوتر از من در سرنوشتم نقش بسته بود من فقط یک عیبه بزرگ داشتم هر کاری به هم بجوم میکردن با جدیت انجام میدادم. رشوه رشده به کسی التماس نمیکردم، کردم بیشرف نبودم، به همین جهت هر دری برویم بسته می شد. و کسانی که سرشان را از لایان درها بیرون آورده بودند، نمی‌گذاشتن من داخل بشم. هرچی می‌خواستم به طرف راه درستی و پاکی بروم، همه مرا به راه واقبازی و بدبختی می‌خواندند. خوناست به گذار اصل داستان را شروع کنم. اگر یادم باشد برای تعریف کردم که با سر شکسته و باندپیچی شده سوار اتوبوسی شدم و به طرف ارزروم رفتم تا شاید در گوشه خلوتی لخمینانی پیدا کنم. جایی که می‌خواستم برم فقط اسمشو می دانستم یکی از زندانی‌هایی که اهل اونجا بود و مدتی توی زندان با هم بودیم خیلی از دهاتشان تعریف می کرد و مرا قسم داده بود که بعد از آزادی از زندان سر بهش بزنم اینو که بهتون گفتم ما سابقه دارها نمیتونیم تو شهر بزرگ و چک پلیس باشیم مردم هم دیگه آدم رو تحویل نمی‌گیرن. وقتی یک نفر پاشلیز میخوره همه فکر می‌کنن نقل روی ما بیفته اولی با لگر دورت میکنه و دومی و سومی و چهارمی هم همینطور که توی اتوبوس به طرف سرنوشت مرموزم میرفتم داشتم برای آینده هم نقشه میکشیدم ماها که از اجتماع باخورده این آدمهای علکی خوش هستیم ولی اینو باور کنید که امثال ما آدمهای شرافتمندی هستند و تینتشان پاک شب تاریکی بود بیشتری مسافرها چرت میزدند صدای اتوبوس که توی سکوت بیابان تنین وحشت آوری داشت گوش مرا آزار میداد کسی که پهلوی من سرووز مفلوکی داشت اما استخان بندیش قوی بود ازش پرسیدم کی به این ده می میرسیم یارو دستی به سیبیل های کلوفت و آویزانش که تا چانهش می میرسید کشید و با تردید جواب داد با خداست اگر اگرش چیه اگر راهزن ها جنومونو نگیرن صبح میرسید راهزن؟ چی راهزنی؟ راهزن بگه من راهزن رو نمیدونی؟ بی اختیار دستم رو روی پول هم که توی جیب کتن بود گذاشتم و پرسیدم اینجا راهزن هست؟ مگه جایی هست که راهزن نباشه؟ اونم اینجا که همش کوه و کمره اینجا یک راهزنهایی پیدا میشه که لنگهشن توی دنیا نیست بقیل دستیم داشت از شجاعت و سنگدلی راهزنها و لاتیشون تعریف میکرد و من مثل بید می نرزیدم. پرسیدم مگه اینجا ژاندار نیست؟ خنده ژاندارم نباشه البته ژاندارم هم هست، راهزن هم هست. خداون رزق هر بنده ای رو از یک جا حواله میکنه. کار راهزن چیز دیگه است، کار ژاندارم چیز دیگه. البته گاهی هم به کار هم دخالت میکنه. کی دخالت خلاص میکنه؟ معلومه دیگه، راهزن که به کار ژاندارم کاری نداره. پس ژاندارم گاهی به کار راهزنها ها دخالت کند. اون وقت که کار بدتر میشه. یارو که دید که من خیلی تعجب کردم، پرسید تو کجایی هستی؟ اهل استانبولم مگه استانبول دوست پیدا نمیشه؟ اونجا جیب برود کلاهبردار نیست؟ هست مگه پلیس نیست؟ اونم هست دیدی حالا پلیس هم هست دوست هم هست اینجا هم همینطوره راهزن هم داریم الحمدالله جاندارم هم داریم خب حالا ما رو میگیرند؟ معلوم نیست برادر مونده به قسمت اگه امشب نوبت اینجاده نباشه سالم در میریم وگرنه حساب همه ما پاکه اینه که داشت برنامه حرکت کشتی را تعریف ترس ترسورم داشت و هول توی دنم افتاد خدایا خداوندا گیری راه زنها نیفتیم بازم کار دستم بده.